بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام و على محمد و آله الطیبین الطاهرین خیلی مقدم عرض می کنم به حضار محترم محققان دانش وجوهان دانشجویان جویان برای شرکت ترید مجلس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 به انجام رسوندیم و در نوروزی روزی که در راه دو ماه دیگه یازده سال فعالیتش رو تمام میکنه و واقعه دوازده همین سال میشه علیکم و در حقیقت در دوگهی که فعالیت کرد تونست یکی از مراجع بسیار قابل احتناع در حوزه مطالعات اسلامی با نگاه به میراسه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 طبق برنامه ریزی که انشالله خواهد شد در موضوعات مربوطه به میراس مکتوب اسلامی برگزار بکنیم و طبیعتا جلسات به صورت کوتاه، یعنی سخنگانه های حدود یک ساعت الی کنیم ساعت خواهیم داشت و بعد از اون هم یک مدت کوتاهی رو اختصاص خواهیم داد به جلسات پرسش و پاسخ, پاسخ میتونه در مورد موضوع همون جلسه سخنرانی باشه یا درباره باقیه کارهای دیگری که سخنران در فعالیتهای علمیش انجام میده این جلسه اول که مرسوم هست در فعالیتهای اسلامی سعی کردیم با موضوع قرآن و مرتبط با کلام خدا شروع بکنیم لذا موضوع سخنگانی جنب آقای در باقیه مصاحف کوهن قرآن هست که عموما در فهرس نگاری نسخ خطی بهش به صورت تخصصی پرداخته نمیشه و حتی میشه گفت کمتر از توصیفی که نسخ غیر قرآنی دارند توصیف میشند به این معنی که فرض بکنید اگر که کتابی از مثلا در تفسیر قرآن باشه یا کتابی در فقه باشه یا کتابی در تاریخ باشه در زمینه های علوم دیگه باشه به مشخصات نسخ و مشخصات متن به تفصیل پرداخته میشه مقایسه میشه با آثار دیگه در حالی که در مصاحف قرآنی توصیف ها معمولا خیلی اندک است و به هر حال به خاطر اینکه که همش به یک کتاب قرآن دیده میشه چندان مورد بررسی قرار نمی گیوه. موضوع سخن جناب آقای کریمی ها در این زمین است. خود آقای کریمی از چهره های نامدار مطالعات قرآنی هستند. متولد 1350 هستند. در حوزه تحصیل کردند، در دانشگاه ابتدا فلسفه خواندند، بعداً دکترای علوم قرآن را از دانشگاه تهران گرفتند و خب جدای از تحصیلاتشون فعالیت علمی خیلی حجمی داشتن صد مقاله علمی ازشون منتشر شده در موضوعات مختلفی مثل ادبیات عرب حدیث و سیره تاریخ تفاصیل شیعی و علوم قرآنی و حدود دوازده کتاب هم از آثاریشون چاب شده که باز بیشتر اونها در همین مبحث علم قرآن هست یه کتاب ارجشمندی که دارن کتاب شناسی مطالعات قرآنی هست که یه مرجعه بسیار تخصصی است یه کتاب دیگه فرهنگ نحوی ساختارهای قرآن هست و اصری که من اخیران دستان رسید استفاده کردم وقتی اعراق بودم کتاب ترجمه قرآن‌های اصر اوموی بود از آقای دروشکیشون ترجمه کردم توی پنج ساله اخیر جناب آقای کریمینی تمرکزشون رو گذاشتن روی مطالعه روی مخطوطات قرآن و کارهایی که الان دستشون هست دوتا از قدیمترین نسخ قرآن رو یکی در استان قدس و دیگری در نجف رو که قرار است به صورت فاکسی میله بشه کار پژوهشش رو ایشون برآهده دارن و یک کاری هم که در حقه متن المصابیح فی تفسیر القرآن وزیر مغربی بود کتاب بسیار مهم است هیشون انجام دادن و پایاننامه دکتریشون هم همین بود و الان دارن آماده میکنن برای انتشم به هر حال بیشتر مسده دوستان نمیشم و استفاده میکنیم توی وقت کوتاهی که داریم بیشتر از جناب آقای کریمینی ها و السلام علیکم و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم سپاسگزارم از دوست عزیزم جناب اوسیلاجی آقای تباتبایی طب یزدی ایشون با لطف خودشون خیلی بیش از اون چی که بود در معرفی من گفتند و خوشحالم که در نخستین جلسه از مجالس کاتبان این وظیفه رو برافت دارم که گزارشی از موضوع نسخ شناسی مصاحب قرآن و اهمیت تحول و ارتقاء اون در ایران ارائه بکنم گزارش من به که تصاویر خیلی زیادی آماده کردم که به صورت بصری قبیه بیشتری رو ارائه بده متکی است بر پاورپوینتی که اینجا شما خواهید دید لذا مجبورم بعضی تصاویر که شاید شما دوست داشته رو باشین دقیقه بیشتری در مدش بشه مکس بیشتری بشه رو مجبورم گاهی وقتا خیلی سریع برم که تعداد زیاد تصاویر قابل دیدن باشه و همه اونها قابل انجام بشه این گزارش رو به شکل سریع به تمام جوانانش برسونم من در قسمت اول صحبتم یک معرفی بسیار اجمالی و سردستی از تنوعی که در های قرآنی از آغاز صدر اسلام تا تقریباً دوره معاصر داریم در چند دقیقه مرور میکنم و در میان های حجازی و کوفی تمرکز بیشتری میکنم برای اینکه دوره خیلی متقدم رو ارائه میدن یه تفاوت‌های رو اونجا نشون میدم در قسمت دوم صحبت خودم می‌کوشم بیان بکنم که اساساً نسخهای قرآنی به ما چه میدهند، حاویه، چه داده هایی هستند و چه اهمیتی داره که ما در اونها کمدکاب بکنیم و نسخه پژوهی قرآنی بکنیم. و در قسمت سوم و پایانی صحبتم باز نشان دادن نمونه هایی تلاشم این هست که ایده هایی رو مطرح بکنم برای اینکه نسخه پژوهی قرآنی ما و نسخه شناسی و فهرسنویسی قرآنی ما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 قدیمی ترین قرآن ها به خط معیل یا حجازی نوشته شدند که اینها رو معمولا تاریخ بزاری در قرن اول یا اوایل قرن دوم میکنن. دسته دوم انواع خطوط کوفی هستند که کوفی قدیم حساب میشن اینها. از میانه های قرن دوم یا حتی عباخر قرن اول هم ممکنه بشه از اونها نمونه هایی یافت که تا عباخر قرن چهارم از این سبک کوفی در شامات در عراق در مناطق مناطقی مثل مصر مثلا امر امرعاست در پستات مصر مراکز اصلی قرآن نویسی با این ثبت بوده و ما این ثبت رو خیلی خیلی به ندرت در خود ایران خودمون داشتیم سبت دیگر کوفی که از حدود قرن سوم آغاز میشه و بهش کوفی مشرقی یا در بعضی حالات خاص کوفی ایرانی گفته میشه تا حرودن صده هفتم همچنان نوشته میشه و در او شمایلی از تراحی های هنری حتی حالت خط و نقاشی هم ما میابیم خیلی هنری تر و هنرمندانه تر میشید یعنی کاتب صرفاً نمیخواد به ما بگی که متن قرآن چیه بلکه میخواد بگه علاقه بر متن قرآن هنر من در زیباسازی این متن قرآن و نقاشی کردن این کلمات چگونه است.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 مختلف معاصر با حکومت سراتین مختلف دسته بندی بکنیم قرن چهارم تا هفتم تقریباً همزمان با دوره عباسیان هست تا سقوط بغداد که قرآن ها در ایران در عراق تحت حکومت عباسیان یا بدون حکومت عباسیان در دوره قذنبی ها در دوره سامانی ها در دوره سلجوقیان کتابت شده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 در ایران دوره قاجاری داریم و یک مناطق رو من جدا کردم مثل شفقاره، بالکان، یمن به طور خاص اندولوس شمال رو آفریقا اینا رو که جدا کردم آفریقای سیاه و مرکزی آسیای میانه و یا آسیای شرق دور اینا هم برای خودشون تو دوره های جدید یه سبک از قرآن نویشی داشتن که فعلا اونا رو من در بحث خودم وارد نمی کنم در اون دو قسمت اول یعنی خط کوفی و خط حجازی که تقریبا چهار در طول کشیده،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 هجازی رو سمت راست می‌بینیم و در مقابل نسخه کوفی که در کتابخانه ملک منصوب به امام حسن البته امام حسن مشتبه علیه السلام قرار داره دو سبک متقابط باز یک نمونه هجازی در مقایسه با یه نمونه کوفی یکی از مسجد جامعه سنعا و یکی هم از کتاب خانه ستون، مسجد منطقه بنای چلسطون که یه خط کوفی پخت جدید هست در مقایسه با نسخه هجازی این آخری هم نمونه معروف نسخه بیرمنگام است که چند سال اخیر دیترونی ها سراسدا کرده بخاطر آزمایش کربون 14 که روش انجام شده و سمت چپ یک نسخه کوفی با یه سبک دیگه از کوفی های قرن دوم تا چهارم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 سبکشون به سمت راست افتادگی داره و قربی ها هم به همین دلیل این اسم حجازی رو روی این نو خط خاص که به سمت راست افتادگی داره گذاشتن و اینها میگن حجازی. کتابت اینا پیوسته هست. البته تو کفیه های بعدی هم تا حد زیادی پیوسته هست. پیوسته به این معنی که کلمات از هم جدا نمیشن پشت سر هم نوشته میشن به هر جا که یک کلمه ای جا کم بیاره نصف شکسته میشه و به سطر بعدی منتقل میشه. این سبک از نگارش که متاثر از نوشتن متون کوهن در منطقه خاورمیانه در در این اون این بوده از قبل از اسلام در متون سوریانی در نوشته های قرآنی قدیمی هم عیناً رایت شده تذهیب سر سوره چیزا توی این نسخه های حجازی تقریبا وجود نداره جز اونایی که معمولاً به شکل خیلی ساده و الحاقی بهشون اضافه شده حد اکثر تمام سطح پوست برگ استفاده میشه و در همین حال هیچ تغییری به نظم سطرها و بندی و صفحه بندی وجود نداره به خاطر همین شما بندی ها را خیلی شلخته و بی‌نظم می‌بینید گاهی وقتا توی صفحه 20 سطر تو همون صفحه بعدی 25 سطر کاتب می‌نویسه و این اتفاق توی هایی که به نظم میرسن دیگه اتفاق نمی‌افته در کتابت صداها خیلی رسم ناقص وجود داره نقص شدید مثلا در کلماتی مثل کانک به صورت چن نوشته بشه قاله به شکل قله مال به شکل مل نوشته بشه کلمه زو به معنای صاحب با الف نوشته بشه زوا نوشته بشه کلمه اولو به صورت اولا نوشته بشه همچنان که اینجا میبینین شی به صورت شای نوشته بشه اینا اگر در یه نسخه یکی دو تا باشه خیلی دهنده کهنگی و قدمتش در قرن اول نیست ولی اگر در یه نسخه تمام قولها تمام قاله ها قول نوشته شده باشه یا تمام کانوها کنون نوشته شده باشه نشانه خیلی خیلی کهنگی در شکل رسم کلمات هست قرائب املائی در رسم کلمات خیلی زیاد هست تو نسخه های حجازی چیزی که ما حتی اونها رو ممکنه غلط تلفظی بکنیم مثلا توبا رو تاوا بنویسیم مثل الاه رو با یه دندونه اضافه مثل الیه بنویسیم داود رو به صورت دوات بنویسیم جابجا جا. اینا شکل هایی که ما در نسخه های حجازی میبینیم و تقریبا در نسخه های کوفی دیگه در قرن دوم یا از میانه های قرن دوم اینا دیگه وجود ندارن جعتکوم رو مثل جاتکم بنویسیم مثلا در یه نمونه این, این چنین سکی از نوشتن رو بهش میگیم قرابت در رسم و جالب این که در تمامی مصاحف حجازی یا در اکلب قریب اتفاق اونها اکثر قریب اتفاق اونها پایان آیات مشخص میشه از همون ابتدای که کاتبان اینها رو می نوشتند مثل های کتاب مقدس در مسیحیت پایان دانه دانه آیات و حتی بسمله علامت خاصی گذاشته شده و اونها رو مشخص کردن که اینجا پایان آیات ولی به وقتی به قرن دوم میرسیم یک باره تمام اینها از بین میره و ما سه قرن تقریباً پایان آیه نداریم بسمله هم آیه تلقی نمیشه و بعدا این نسخه های کوفی رو کسانی میان پنجتا پنجتا یا دهتا دهتا تأشیر یا تخمیص میکنن و پایان آیه هاش رو معین میکنن ولی از ابتدا پایان گذاری آیه تو رسخه های کوهن وجود داشته و من حدث میزنم این حدث اولی هم هنوز تحقیم کامل نیست، من حد میزنم این جدا شدن بسمله یعنی بسمله رو به صورت یک بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه مستقل جدا و مشخص نکردن یکی از دلایلش میتونه دعواهای فقهی قرن دوم باشه که دی بسیاری از مکاتب فقهی اهل سنت به خصوص معتقدن که بسمله جزء قرآن نیست و در مصحف هم این موضوع خیلی تاثیر خودش رو دو در دوره عباسی ها گذاشته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 پر از غلط رو گویی داره تصحیح میکنه البته این نس نص... این نکته تا اندازه با مصاحف کوفی بعدی قرن دوم سوم چهارم اشتراک داره و دو نکته آخر که فعلا من, من اینا تعداد ویژگی ها رو حدود 25 تا درآوردم ولی مهمترین هاش این 10 11 تا است که عرض میکنم و در یه مصحف حجازی قرن اولی معمولا 90 درصد اینها ممکنه یک مرغمی از 90 درصد اینها وجود شه اختلافات موضوع اختلاف قرائات و شق و شاز، شواز در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 اون ترتیب ها شکلش با شکل عثمانی رایج متفاوت بوده و در مدار اصلی جامعه وجود نداشته یعنی جریان نداشته حالا ما نسخه های حجازی پیدا می کنیم امروز دستیب پیدا می کنیم که ترتیب اونها احیانا متعارف و با, با اون که ما امروز متداول هست یکی نیست چند نمونه از اینها رو ببینیم این نمونه است از دو تا نسخه حجازی که همچنان که می فقط یک سطح بین دوتا سوره فاصله گذاشته شده شلختگی بی نظمی مشهوده در این نسخه باز به همین صورت جدا شده دوتا سوره از هم دیگه همچنان که اینجا میبینید لی از زکر الباب نوشته شده اولاالالباب یه نمونه از اون قرابتر است بسم الله را همچنان که اینجا میبینید یه علامت پایان آیه مشخص وجود داره که تو تمام پایان آیه های دیگه تا نقطه خیلی ریز هست در این یکی هم همینطور این پنج تا نقطه کناره هم گذشته که پایان آیه رو مشخص میکنه. همون چیزی که اینجا در پایان این آیه میبینید. برای بختمله در قرن اول مشخص میشه. این هم چهار نمونه از بسم الله هایی که در نسخه های مختلف با سرک های مختلفی پایانشون مشخص شده و این در قرن اول رایج بوده. یه نمونه از یک صفحه از یه نسخهی در سنها که هرچی قاله و قالت و قالو هست بدون علف و به شکل ناقص نوشته شده ما بایمگیم رسم شریط ناقص و شدتش در این صفحه پیداست یعنی یه دونه قاله با حصف علف نوشته شده بلکه تا قاله رو شما میبینید در یک صفحه که بدون علفه من برای رسم ناقص در مورد کلمه کانه فقط از یک مصحف شماره هجده در مشهد که مشغول تصحیح و چاپ فاکسی میلش هستم هر کانه دم دست بوده آوردم. همه کانه هایی که شما می بینید ما کانو یعملون به صورت کنو یعملون اینجا اینجایی که در اینجا می بینید شکل ناقص نوشته شده در سوره های مختلف فقط در یه قرآن و ما در قرن دوم در نسخه های کوفی و غیر حجازی دیگه من تا حالا لا ندیدم که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 با یک علف حالا توضیح این که این چرا با علف نوشته شده این بحث‌ها خیلی مفصل من الان به قصد ورود به دلائل لهجه‌ای یا قرائتی در این موضوع ندارم یا رسم الخطی در این موضوع ندارم حاکون اینا جداگونه در این نسخه پایینی همون نسخه بیرمنگام هست که علفش بعد از مدتی پاک شده پاک شده و در این نسخه که فکر می‌کنم در شاتبی بیوتیک برلین هست اگر اشتباه نکنم علفش بعد از اینکه پاک شده این خط به اینجا متصل شده و مطابق رسم امروزی تو نوشته شده. در این نمونه کلمه شای رو بینی در نکته‌هایی که من در مناطقی که من آبی کردم پنج تا شای که همه به صورت شای نوشته شده و دوتا اله که به صورت اله باید دو دونه دامدونی اضافه در اینجا و در اینجا نوشته شده و این شکل رسم ناقص در این کلماتی شده. این هم دو تا مثال از بالایی نسخه کتابخانه ملی فرانسه و پایینی نسخه شماره هجده در مشهد است که فاکسیمیلون داره انجام میشه. اله ها به صورت الای نوشته شده. خب این نمونه‌ای که دیدیم اولا الالب اولا الالب نوشته میشه و مثال هاش از نسخه دوباره شماره 18 تمام الوها به صورت اولا الالب غیر از این اولی که این اولا بوده و بعد یه کسی اون پاک کرده و به تصور خودش درستش کرده ولی بقیه این ها دو شاخه‌دار رو شما می‌بینین سر جای خودش هست این شکل از رسم ناقصم یکی از ویژگی های نسخه های قدیمی بعد از مصحف شماره 18 هچی زو دم دست بوده من گذاشتم تو اینجا زوها رو میبینین همه با علف هست مثل قالو که جورش ما علف میگذاریم اینا برای زوها همه علف میذارن زل و مثلا زوا الفضل به مثلا یه نمونه از غیر متعارف گفتم در نسخه ها ممکنه قرائات صحابه پیدا بشه این لایه زیرین در نسخه شماره سفیت بیست و هفت در که لایه زیریش یه نسخه غیر عثمانی هست و به قطع حجازی هم در رسم حجازی نوشه شده مثلا این آیه 196 سوره بغره فمنکان منکم مریزن او بهی ازن من رأسهی اینجوری نوشه شده فانکان احدون منکم مری زن او بهی ادب فمن کان منکم تبدیل شده به فب... فان کان احد منکم مریضان این نمونه های قرائات غیر متعارف قراءات شاز یا قراءات منسوب به صحابه رو ما در نسخه های حجازی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 قلب این اینجا سوره شعرها تموم میشه و ما انتظار داریم سوره نم رو شروع بشه ولی به جای او سوره و صافات بسم دایر رحمان رحیم و صافات سوره 37 شروع میشه و این ترتیب ترتیب منقول است که ابن مسعود در ترتیب مصحفش بعد از شعرها سوره صافات قرار داشت خب در نسخه های حجازی از این نوع ترتیب های غیر متعارف باز میتونیم پیدا بکنیم این یک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 فقط کلماتو نمینویسه نون و القلم و ما یسترون علاوه بر اینکه کلماتو مینویسه هنر نقاشی خودش رو هم به رخ میکشه و او رو پردازش تصویری میکنه و اوج چنین نگارش هایی رو ما در کتابت خاندان غزری خاندان بدرق غزنوی که تصاویری از اون رو در ادامه خواهید دید اینم یه نوع دیگه ای از کوفی ایرانی که در موزه ملی ایران هست این دو نمونه از سبک مختلف کوفی مشقی یا ایرانی که در آستان قدس هست هر دوشون این دست چپی تاریخ داره 580 و فکر کنم 586 اگر اشتباه نکنم دست راستی تاریخ نداره ولی به قروض قرن پنجام میخوره و این نسخه شماره 17 آسان قصر از که روی کاغذ هم نوشته شده اینا دیگه تقریبا روی کاغذ نمشه من یک نکته خیلی مهمی فراموش بکردم بگم وقتی از قرن سوم میگذاریم به قرن چهارم وارد میشیم با فراگیر شدن کاغذ قطع مصحف های قرآنی از پوست که تبدیل به کاغذ میشه از حالت افقی هم تبدیل به حالت عمودی میشه تو نسخه های کاغذی ما ندرتن مصحفی رو پیدا میکنیم که قطعش بیازی باشه دیگه از قرن چهارم و بعد دوباره قطعا برمیگردن به همین حالت و این نسخه جالب است که به امام جفر صادق علیه السلام منصوب شده در حالی که روی کاغذ است و یه خط که پخته کوفی مشرقی قرن پنجمیه.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 صفحات دیگه از همون برگست نشانه، همچنان که میبینیم روشن هست که کاتب فقط کلمه میشه بلکه گویی داره نقاشی میکنه من از اینا خیلی سریلت میشم یعنی نمونه از همین سب که وراغ غزنویه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 خط نسخه قرن هفتمی در قونیه نوشته شده این در چستر بیتیه. این نسخه مملوکی که از قرن هشتم در چستر بیتیه. و این و اینم معروف زرین قلم باز در چستر بیتیه. کتابت 582 که انواع خطهای ریحان و محقق و مثلا این خط محقق احمد بن سهروردی در کتابخانه در موزه ملی ایران این کتابت خط سلس تقریبا میشه گفت از ارغون کاملی باز در موزه ملی ایران این ها کتابات دیگه جدید هست میرسیم به دوره های جدید این یه نوع خط ریحان در باز موزه ملی ایران از قرن هفتم، یک خط توقی از قرن هشتم، دیگه این از حالت کوفی در اومده و قرن های جدید میرسیم یه نسخه ای از ها که یاقوت‌ها تقریباً چند تا الان پنجاه و 5 تاشو من پیدا کردم یعنی شما یا خودشون رو دیدم یا تصاویرشو یا اینکه آدرسشو بدی کردم بیش از سه چهارم اینها جعلی هستند و امضاءهای ملحق دارن به خاطر اینکه خیلی قیمت و ارزششون اونها رو بالا می‌بردن به یاغوت مصطفی منسوب شدن خب بخش اول صحبت من تا اینجا تمام شد یه گزارشی بود اد عد... بله برای بله تاریخ داره. الان در موردش بحث می‌کنم بله. این تاریخ داره تاریخ 292 هجریه خب بخش اول صحبات من دمون شد حالا من میخوام بگم که واقعا این دانش نسخه شناسی قرانی به چه دردی میخوره به چه حوضه های مرتبط میشه خیلی سریع اگر بخوایم چند حوزه مختلف رو من در نظر گرفتم با توجه به زیر وقتم ازشون رد میشم یکی تاریخ هنر و معماری توجه بکنید ما دانشمندانمون ما عموماً به نسخه های قرانی همچنان که دوست من جناب آقای تباتبایی طبع هم در ابتدای جلسه گفتند توجهی نداشتند و ارزش درونی و تاریخی اونها رو از جهات مختلف بررسی نمی کردن به همین دلیل ما جدید قدیمی ترین نسخه هایی که توی حوزه های مختلف و علوم در اختیار داریم به فقه و اصول و تفسیر و اینها منظور نشه که از قرن خیلی قدیمی بگیریم قرن 4 مثلا یه نسخه از غریب ابن داریم که در لایدن هست این یکی دو تاست یعنی حتی تعداد اندوشان یک دست هم تعداد این نسخه های قرن ثومی علمی ما نمیرسن یعنی مذارم از علمی غیر قرآنیه قرن چهارم و پنجام خیلی نسخه کم داریم و بعد به سراغ قرن ششم هفتم میاییم اما اگر کسی به سراغ قرن اول تا سوم سو بخواد بره تنها راهش دسترسی و بررسی نسخه های قرآنی یعنی در درون اونها انبوهی اطلاعات تاریخی که اولیش تاریخ هنر و معماری از از قبیل تاریخ خوشنویسی و خط که ما هرچی اطلاع بخوایم از قدیمی ترین قرآن های قرن اول دوم دو سوم باید کژ گو اون سه قرن برای ما مجهولن اگر به سراغ نسخه های قرآنی نرید تاریخ تذهیب معماری. معماری با الگوهای هندسی با طالعنی چند چیز خیلی جالب یه مثال بزنم اینجا الان اگه شما فرض اینجا مثلا اگر همین امروز یکی از شما روی لباس خودش یک ستاره بر موسوم به ستاره داوود حک بکنه یا روی ماشین خودش بکشه خیلی این عمل در هر کشور اسلامی عمل زشت و ناپسندی تلقی میشه و اگر مورد حالا اهانت یا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 و از همه جالبتر اینکه همزمان در نسخه های قرآنی از این ستاره و انواع ستاره های دیگه استفاده شده و ستاره شیشبر خیلی پیداست خیلی هویداست و کسی اونها را محرب نمی‌کرده این بخشی از تاریخ و هنر و معماری گذشته ما که از طریق نسخه پژوهی قرآنی کشف میشه و ما میفهمیم گذشتهگان ما چگونه عمل می‌کردن چگونه فکر میکردند، چه چیزی رو جزء فرهنگ خودشون می‌دونستان و مثلا لباس پوشیدن که تغییر کرده این موضوع هم توی فرهنگ و معماری ما آرام آرام کرده تاریخ ادبیات رسم حروف عربی رو به قدیمیترین اشکالش ما تو نسخهای قرآنی میبینیم خط فارسی رو به قدیمیترین شکلش ما در نسخهای قرآنی میبینیم در نسخهای قرآنی که ترجمه دارن یا در نسخهای قرآنی که تاریخ کتابت و وقف و مالکیت به زبان فارسی نوشته شده ما قدیمیترین دستنویس فارسی که امروز در داری اختیار داریم کتاب الابنیه نسخه ای است که در وین قرار داره به خط ازدی در سال 447 قمری خیم از اون هیچ دستنلیتی به فارسی نداریم و اگر به سراغ نسخه های قرآانی بریم اف غرن سوم چهارم و نیمه اول قرن پنجم که هنوز چیزی در داری اختیار دارییم انبوهی یادداشت و نوشته به زبان فارسی و با خط با حروف عربی و به خط فارسی می تونیم بیابیم. اینا ارزش تاریخی بسیار زیادی دارندن که به ما نشون میدن لحجه رو ن میدن نوع کتابت حروف رو نشون میدن و همچنین تاریخ ترجمهسی تجم های فارسی قرآنی که در این نسخه ها وجود داره. ارزش واژه‌شناختیش ارزش زبان‌شناختی خیلی خیلی است. تاریخ اجتماعی مثل اموری مرتبط با استخاره، تفاول، نامگذاری فرزندانی که در آخر قرآن‌ها هست، این اصلاً یه امر جزئی نیست. از قرن چهارم پنجم ما در پایان قرآن‌ها تاریخ کتابت، تاریخ تولد فرزندان رو درج کردیم. یعنی گذشتگان ما درج کرده و این سنت وجود داشت. اجزای مختلف قرآنی که قرآن رو به یک جزء بنویسن یا دو پاره، پنج, پاره، پنج پاره، نداریم هفت پاره، چارده پاره، ده پاره، یا سی پاره، یا صد و پنجاه پاره بنویسن مثلا شهست پاره هم داریم مثلا چیزی به نام تقسیم بندی صد و بیس پاره تا همین سد دیدی سال اخیر ما اصلا نداشتیم ولی تقسیم بندی چارده پاره و هفت پاره فراوان داشتیم که قرآن رو در چارده قسمت جدا یا هفت قسمت جدا بنویسن سنت انواع وقت در خانقاها، مزارات، اینا همه توی این نسکه ها در میاد.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 تاریخ کتابت قرآن ها می‌یابیم. تاریخ صنعت مثل صنعت چوب، کاغذ، پوست، کتاب‌سازی، تلاکوپی، جوهر مرکب، اینا که خب بحث نسخه‌شناسیه و آخرین و مهمترین مسئله تاریخ قرآنه. بخش زیادی از تاریخ قرآنی که ما امروز می‌شناسیم بیشتر از 95 درصدش حاصل اون چیزی است که به صورت گزارش‌های روایی به دست ما رسیده. یعنی ما از متون تدوین‌شده کتاب‌های حدیث، تاریخ، کتاب‌های علوم قرآن درمی‌یابیم که به ما گفته می‌شود قرآن نقطه داشت اول یا نداشت قرآن اعراب داشت یا نداشت و قراءات این چنین بود یا آنچنان بود اما سند بسیار مهم و قابل استناد و قابل جستجو در حوزه علم خود نسخه های قرآنی هستن و نسخه های قرآنی بخش زیادی از جزئیات تاریخ قرآن رو به ما می نشون میده به ما می نمویانن. مثلا ما گزارش های قرن دوم آخر قرن دوم مثلا فضال قرآن ابو عبید یا سجستانی در نیمه اول قرن چهارم یا دانی از همه معروف در دانی در قرن پنجم یه جدولی از اختلاف, مسا... اختلاف و مساحف الامسار داریم بین شهرهای کوفه مکه، مدینه، بصره و شام مصحفهای اولیه تلق گزارش گزشتگان ما در حدود چهل مورد تفاوت در کلمات داشته این متأله غیر از اختلاف قرائات هست که یه پدیده متأخره و ما این رو به شکل صخب شده در متون کهن خودمون داریم حالا وقتی به مصحف‌های قدیمی امروزی و قابل دسترسی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که هر کدوم از اینها واقعاً به یکی از این شیوه ها نزدیک‌ترن یا به شکل سیستم کوفی یا به شکل اختراف و مصاحف مثلا بصری و یا شامی و غیره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 و در برخی موارد به مدینه بسیار نزدیکه مثلا نسخه شماره هجده که من متکفل کار تصحیح و مقدم نویسی و تحقیقش هستم برای چاپ فا... فاکس میله یه نسخه مدنیه یعنی از هیزه اختلاف مصائب و لمثار ویژگی‌هاش اون مواضع خاصش خیلی خیلی بیشتر بیشتر از 90 درصد به مدینه نزدیکه دو مورد داره که اونم باز از مکه بیرون نیست به مکه نزدیکه لذا ما این ویژگی‌ها رو در نسخه‌های کهن می‌تونیم به همین صورت بیابیم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 اما هیچ کدوم این نسخه ها تا اونجایی که من دیدم حتی یک دونه از اونا به قراعت آسم نیست. نه هفت از آسم و نه ابو بکر از آسم. این نشان میده که قرائت و نویسندگان این نسخه ها و یا واقفان این نسخه ها حنگی یا شیعن صد درصد مشخص است که شیعن یا سنیان صد درصد مشخص است که سنی هستند محل کتابت اونها هم تقریبا 90 درصد در خود منطقه ایران یا ری است یا نیشابور است یا تبرستان است یا خراسان به معنای عامش و شامل ماوراءالنهر و, و اینها این نشان میده که ما قرائات در قرن 4 تا 6 تصوری که ازش وجود شده یا رواجی که از او وجود و رواجی که از او داشتیم با اونچه که امروزه و بعد از تشکیل و سیطره دولت عثمانی در منطقه مشرق اسلامی خیلی خیلی متفاوته. بخش زیادی از تاریخ قرار از تو خود این نسخه ها در میاد. من نمونه های از این رو اینجا میزنم. اول بینیم سراغ اون نسخه ای که گفتم قدیمی ترین نسخه است که به خط نسخ کوفی نوشته شده. مشا... نکته خیلی حا... مهمی رو فرموندن دوستمون آقای دکتر دو دو جا بزن قراعت هایی که در نسخه های قرون چهارم تا ششم به کار میره تا اونجا که من دیدم هیچ وقت یک قراعت خاص نیست در مشرق در مغرب قراعت خاصه قراعت نافعه در مغرب قراعت نافعه یا قالون از نافعه یا ورش از نافه، گایی هم ابو امر ابو امر هم به شکل کامل و صد درسته مغرب یعنی از مصر به اون طرف لیبی، الجزایر یعنی افریقیه به معنی آمش تا اندولوس و موریتانی و اینها که اونجای که ای بوده و خاطر اینکه مالک هم، فقهشون فقه مالکی هست یه دلیلش رواج قراعات نافع هست که رواج هم مدنی بوده و این اونجا قراعات و در مشرق ما قرونای قرن 4 تا 6 هممون یک تلفیقی از قراعات هستن یعنی در نسخه مثلا همین که به خط ابن در چستربیت مشهور هست و نوشته شده شما یه قرائت نمیبینید قرائت ابو عمرو میبینید قرائت نافع میبینید قرائت می میبینید می و قرائت یعقوب از قرائ اشره یعقوب با اینکه جز قرای عشره هست، از بعضی قرائ سبعه تاثیرش در کتابت قرآن بیشتره حضورش در در کتابت قران ها بیشتر است مثلا از قرائت حمزه ما بیشتر میبینیم یعقوب رو این نسخه یک نسخه بسیار پرقلطی بوده در سی جوز یک کاتب بسیار معمولی در حدود سال 267 هجری احتمالا این کتابت کرده و خیلی طبیعی نسخه ها پرقلط در می یا کمقلط در می اومدن. نسخه پادشاهی و ملکی نبوده اما معمولا یه نفر می اومده و اون رو تسهیم می کرده نام مسحح رو ما در اختیار داریم یه نفر اومده سی این نسخه رو از اطلاع تا انتها بررسی کرده قلط رو رفت کرده و نقطه گذاری و اعجام هم کرده و در پایان به فارسی در پای تمام اون نسخه ها تاریخ زده و اسم خودش رو نوشته مثلا در این تکه که در اسرائیل الان در کتاب ملی اسرائیل قرار داده نوشته این جزء درست بکرد به اجم و نقط و تشدید احمد خیقانی نصره الله فدین به من نهی سند اثنه و تسعین و اثنه ایمه این تنها جاییه که من دیدم به کلمه دیویس یه نفر گفته اثنه ایمه یه عربی خیلی دربوداغون داره در اینجا نوشته این جامعه را درست بکرد احمد ابن عبالقاسم خیقانی یعنی نیشون میده که کاتب ایرانی نیست خیقان البته خیقان اشتباه من اشتباه تلفظ کردم این نام درستش خیقانیه یه منطقه فرسنیزیه که در فرسنیزی خانی اسرائیل گفته این در رزن همدان بوده من یه وقتی حد ممکنه این خیگان نزدیک طالقان باشه ولی الان تقریبا به قعر رسیدم که این خیگان یا خایگان یکی از مناطق مشهد خود امروزی ماست و کتابت قرآن و کلا کتابت این جور ها در اونجا بیشتر رواج داشته که یک مقاله الان در مجله آینه میرا فک کنم تا یک ماه دیگه راجع به این موضوع من نوشتم و ترجمه این اونجا خواهد اومد ولی به شما در کتابت می‌بینید کلمه درست زیر دال و را و سین سه تا نقطه گذاشته شده نوع کتابت فارسی که کلمات حروف دال و زال رو نقطه های بالا و پایین می‌ذارن و از هم جدا می‌کنن تقریبا در تمام نسخه‌هایی که تو قرن 4 تا 6 گفتن در آسان قسنز دیگه 800 900 تا وجود داره اونایی که تو منطقه ایران نشه شده، تقریبا تمام اونها این ویژگی رو دارن یعنی زیر را و دال نقطه زیر سین سه تا نقطه برای تفاوت گذاشتن با ش خب از این مورد می‌گازیم این خیلی داده ای مهمیه چون متوالا فکر می‌کردیم قدیمی‌ترین دست‌نوشتی که داریم مال میانه قرد پنجمه ولی الان هرودن به 292 می‌رسیم که آخرای قرن سوم. یه نمونهی دیگه که در تاریخ سنت خمس عشر و اربع کتابت شده ولی جالب از که نویسنده که یک کسیست به نام حسن بن سلح یه قرغانی در 6 جز در تاریخ چارسد نوشته در آستان قدس وجود داره بعد از نوشتن یوم, کتابت یوم از سلسا اصاب منزی حجه منزل حجه به تاریخ یزگردی هم اشاره کرده روز بهمن من مای اسفندار مز.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 یکی از این ج... نسخه های قدیم البته یکی از این ویژگی رو میشه دید من جذال از کتاب آقای آلتگولاش گرفتم که یک نسخه توبکاپی رو چاپ کرده و اینو مقایسه کرده با پنج تا شهر دیگه مدینه، مکه، کوفه و بصره و شام مثلا در بغره سرسی و مصحف مدینه و اوسا به, ها... و اوسا رب... و اوسا به ابراهیم و بنیه بوده در نسخه مدینه و اوسا نوشه شده در نسخه مکه و وستا کوفه و بصره و وستا و دوباره شام و اوسا نسخه استانبول مطابقه با مدینه و شام هست مثلا یا در این صفحه اینجا سوره مؤمنون آیات 87 و 89 به جای سیقولوند الله در مصحف بسره سیقولون الله نوشته شده من اینجا روی این دو تا آیه تمرکز میکنم برای این نکته میخوام در مورد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 مطابق با سیقورونه لله هست این آیه و این البته قراعت ابو امر هم هست یعنی جز به قراعت ابو امر هست ولی جالب است که تا الان من ای منصوب به اعمه که این قرآن ها معمولا از قرن دوم به بعد هستن پیدا نکردم که سیقورونه لله نوشی شد الا فقط یک نسخه که اون هم یه نسخه هجازی هست نسخه هجازی نسخه شماره هجده آستان قدس که در این آیه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 چند تا ویژگی دیگه در تاریخ قرآن به بشنب... نمونه گذاشتم اینجا که مثلا میبینیم سوره فتح در یک قرآن دو تا سوره فتح میتونه وجود داشته باشه و این اصلا برای قدیمی ها عجیب نیست هم به سوره اذا جا انصر الله والفتح میگن سوره فتح سوره الفتح سلاس آیات و هم به سوره انافته فتحنا لك مبینا میگن سوره فتح به هر دو فتح گفته میشه و در یک نسخه من عادیه سروردم به همین سوره سجده این خیلی از نسخه ها این ویژگی رو دارن شاید شما هم ریده باشین که هم سوره 32 و هم سوره 41 هم هر دو رو میگن سوره سجده چیزی که ما امروز هستن برای ما خیلی عجیبه در یک قرآن دو تا سوره همنام داشته باشیم ولی برای مثلا کتابت فردی مثل ابحری در سال 619 در موزه ملی ایران به سوره فستلت سجده گفته شده باشه این سوره فصلته سوره فستلت با حامیم شروع میشه بعضی‌ها البته تو نسخه هاشون کم کم اینو میکنن نامش رو میکنن ها میم سجده اینو میکنن الف لام سجده ولی خب یه خورده تره. یا مثلا در همون نسخه که شما تاریخش شمت پرسیدین نسخه شماره 59 سوره خیلی شایعه به سوره علق بگن سوره قلم و یه سوره قلم هم داشته باشن یعنی دو تا سوره قلم داشته باشین یکی سوره نون و القلم یکی هم سوره اقرب رب اسم ربک الذی چون تو آیه پنجمش چون تو آیه 4مش اللم الیلم عل، بالقلم آمده است به این سوره قلم گفته بشه اینا ویژگی هایی است که ما با رفتن به درون نسخه های کهن تاریخیاب نمیوه یا ازر اجتماعی کسی اومده است این نسخه معروف تفسیر حدادی رو که در نسخه توپقاپی که هم شده عثمان ابن رو تبدیل کرده به علی ابن الحسین که خیلی شیعی بکنه اونو در سال 488 این کتابت شده یا اون نمونه ای که براتون از ستاره ششبر داوود کنم اتفاقا این در همون نسخه توبقاپی هست از تفسیر حدادی که خیلی راحت کاتب یا مذهب از ستاره ششبر برای این کار استفاده میکنه. نه نه ابدا نبوده در, در میان جامعه اسلامی ابدا چون ستاره های ششبر هشت پر، پنج پر، دوازده پر و ده پر و حتی ستاره نامتقارن هفت پر به شکل‌های مختلف در دورهای مختلف تو تزهیب و تو معماری های بناها استفاده می شده شیش پر هم یکیش بوده خیلی می زیبایی خاصی بده و یکی دوتا نیست فراوانه خیلی زیاده فکر می‌کنم تا قرن هشتم هنوز کتابت هشتم یا نهم الان مطمئن نیستم نهم می ولی هشتم خیلی نمونه داریم که کتابت می شده. خب از این میگذرم این یه نمونه شاهنامه است که سرفصلاش رو یه کسی با خط کوفی نوشته و جالب شاهنامه که کتاب کام بدن فارسیه شاهنامه فلورانس معروف که مدتها این رو به عنوان قرآن کاتالوگ کرده بودن توی کتاب خونه قیافه این رو به شکل قرآن میدیدن به خاطر اینکه که سر رو اینا رو به صورت به خط کوفی نوشته چند تا نسخه منسوب به داریم که کتبه او علی بن ابی طالب در بخشهای مختلفش اضافه شده نعلم مولا و نعمن نصير می‌بینید این نصير اینجا بوده خیلی کوچیک اینجا نوشته شده و بخشش پاک شده و منسوب شده به امام همین شکل در نسخه دیگه‌ای مثل این در اینجا باز با یک قلم متفاوت كتبه او علی بن ابی طالب اضافه شده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 به قرائت نافه و به خط کاملا اندولستی قرن شوید پنجم پنجم یا چهارم, چهارم پنجم نوشه شده و کاتب چون نمیتونسته این رو با نسخه های خط خودش همسان بدانه و ببینه قدیمی ها رو به یک امامی به یه فردی نسبت میداده یا این نمونه که خط حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هدیه صد روپیه همونجا قیمت رو هم فیلمجلس تائین کرده و روی اون برگه نوشته که این الان در کتابخانه بادلیان نگهداری میشه من از این نمونه ها میگذرم. خب اینم این نمونه رو ببینیم این یه نمونه است از کتابخانه عتبه حسینیه که نسخه سمت راست اه اه همون نسخه است که ناصرالدین شاه در سفر خودش زیارت کرده در حرم حسینی و یه ای از او الان در کتابخانه بادلیان در آکسفورد قبلی هم بازی تکی از بادلیان در آکسفورد هست که تکی اصلیش در یعنی بخشیش در کتابخانه ملک است و کسی که عامل این کار هست و نسخه های بسیار زیادی رو از ایران به بادلیان برده فردی به نام روزلی که الان یه مجموعه روزلی در بادلیان به نام خودش گذاشته و همون کسی است که قرارداد گلستان رو بین ایران و روسیه از طرف ایران کتابت کرده خب حالا میرسیم به بخش سوم صحبت من که ما چه کار می بکنیم که نسخه شناسی ما ارتقا پیدا بکنه و فهرست نویسی ما از این چیزی که هست به روزتر بشه و پیشرفته تر بشه من یه نمونه در اطلاع آوردم که در کتابخانه در فهرست کتابخانه آیت الله مرعشی یه قرآنی معرفی شده این اطلاعاتی که الان شما میبینین در اینجا اطلاعاتی نیست که تقریبا به طور به قول علما لا یسمن و لا یغنم منجو.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 خلاصه‌ی مطلب این است که وقتی فرستنویس میخواد یه نسخی رو معرفی بکنه، اطلاعات دقیقی در مورد محتوای خود متن بده. خیلی وقتا فرستنویس میگه این قرآن از سوره واقعه شروع می‌شود و به سوره مثلاً انعام ختم میشه. متوجه نبوده که این قرآن برگه هاش جابجا شده یا سوره هاش جابجا شده. حتی همین توضیح رو اونجا نیاورده است که چه قسمت‌هایی از این قرآن افتاده، چه قسمت‌هایی جابجا شده. الان نسخه نمیتایی که در دنیا مثلا کتابخانه های مهمی مثل کتابخانه ملی فرانسه رو مثلا آقای دروش 1983 کاتالوگ کرده وقتی ورودی یه نسخه میشن اون نسخه ممکنه که اجزای مختلف قران های مختلف حتی در درونش باشه هر بخش رو از بخش دیگه جدا میکنن شماره نسخه رو عوض نمیکنن یه نسخه است ولی به صورت الف به جیم دال بخش های مختلفش جدا میکنن میگن این متعلق به فلان تکی که در فلان کتابخانه یا در همین کتابخانه قرار داره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 اگر نامش آمده یا آمره به کتابت اون کسی که امر به کتابت کرده و درخواست کرده اینا خیلی ویج... اگر ما بگردیم خیلی ویژگی‌های مهمی با دوران کتابت اون نسخه رو و ارتباط اون نسخه با تحولات اجتماعی روزگار خودش رو نشون میده. همچنان که امروز هرسیمیت ما وقتی یه نسخه ای از تبیان یا نسخه ای از کافی رو میآوره و رو مقایسه میکنه با جاهای دیگه و یا اسم کاتب براش خیلی مهمه که چه کاتبی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 اینکه ترجمه فارسی که در نسخه آمده است چقدر اصیل چقدر رونویسی از نسخه‌های دیگه است و با سایر نمونه‌ها مقایسه بکنیم های بزنید در مورد مکان کتابت اون نسخه های کوفی در ایران کتابت شده این نسخه با... به چه دلیل؟ در شام کتابت شده در عراق در مصر در اندلس مثلا الان نسخه های کوفی قدیمی که یا حجازی و کوفی قدیم که در فستاد و در مسجد جامع امرواس در مصر قدیم کتابت شده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 مسائل نسخه از جمله قرائات و اینها و یا کاتب ما نیاز داریم اعتراض در مورد سبک یا شیوه کتاب‌آرایی و تذهیب نسخه اینا هر کدومشون چون مشخصا معروف بنی نیستم در مورد قرائات موجود در نسخه این تقریبا کاریه که هیچ نسخه نویسنده تا حالا نکرده حتی قربی ها هم این کارو نکردند خیلی مهمه که ما بدانیم در درون این نسخه چه قرائاتی یا چه قرائت‌هایی وجود دارن تا حدود قرن نهم نه تا اندازه دهم ده در ایران و عثمانی ما توی این مناطق کل جهان اسلام تا قبل از آمدن صفویان در ایران و عثمانی ها در ترکیه و منطقه عثمانی ما انواع قرائات داشتیم حالا یا ترکیبی از قرائات مختلف یا قرائت بر اساس یک مثلا در دوره مملوک ها در مصر قرآن 90 درصد به قرائت ابو عمرو کاتاب شده الان نسخه های مملوکی که در دنیا هست مثلا بخش زیادیش تو چستر یا در دارالکتب المصريه توی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 در مورد یمن نسخه های قرآنی قدیم که من دیدم که های قدیمی هستن یا مثلا نسخه های حجازی هستن نسخ های جدید من خیلی کم توشون دیدم ولی اونها اونایی که من دیدم تا اندازی که من متوجه شدم خیلی تختصیر مغرب هستن یعنی تو اونا قرائت نافع خیلی بیشتره تو که من آلا. من تعداد نسخه‌های جدید در یمن شاید بیشتر از مثلا 30 تا ندیده باشم اون تعدادی که من دیدم و جدید بودن یعنی مال مثلا 300 سال اخیر بودن تو این فاصله. متاثر است این من مثلا فقط در مورد بودم که این تا در 5 تا 6 تا 7 تا نکته قوی داره و اون این یک... بله میشه, میشه گفت این کار کار تیمیه یه کار تیمیه کار باید دسته کم یه اطلاع اولیه میتونه بده. اوه دست... دسته یه اطلاع اولیه میتونه بده دسته کم میتونه همون اول سوره بقره رو ببینه نمیدونمیهخواده اون و یخت اوننش و یک زبون و یک زبون و نمیدونم. ایناش رو ببینه، بزنین و بزنین، یعنی به ما حوه علل غیبه ببنین یا بزنین توی نسخه انبوهی از تفاوت ها بین این دو نسخه و اطلاع همینجا یه اطلاع اولیه در مورد اینکه این قرائتش آسم نیست به ما بده این خیلی مهمه، ولی ما همین مقدار رو هم نمی‌بینیم حالا این... حالا این، من به انوار مقدمات به انواری پیشنهاد گفتم اینکه ایدئال چجوری بتونه انجام بشه؟ این نواده با خودتون آخه روی دروشم خیلی متحیرتون انتخاب این انتقاب تو این انتخاب مکان هات این که درست کرده واقعا نمی‌دونم به این نتیجه مستقبل درست رو خورده پولکی مثلا که بله بله اول میشه گفت تقریبا ندارن و همه منسوب هست یعنی حرف بحث از دوروی برخنامه‌ها نمیتونین اعتماد بکنیم چون برخنامه اصلا درست از گمرک کتاب شده بردار مثلا مرث بحث شده چیزی میگم بخاطر بحث این برخنامه‌ای که در حتی تا در این چور شده دلوی اون دلوی. تمام این توضیحات در مورد تمام قرآن‌ها صادق نیست متضمن در مورد قرن اول ما چیزی در مورد کاتبش نمیتونیم بگیم من همیشه یکی از حرفام اینه که قرآن‌هایی رو که به ائمه نسبت میدن و در پایانش نوشته شده كتبه هو الیبن ابی طالب یانه میشه كتبه او و ذهبه او علی ابن ابی طالب وقتی ما از چنین چیزی رو باور میکنیم دقیقا مثل این میموند که مثلا از رضا یا از الکساندر گراهام شماره موبایل داشته باشیم که بخوایم ممکنه رضا شاه یا الکساندر گراهام بل تلفن معمولی داشته باشه به یه جایی زنگ زده باشه ولی اینکه از او تلگرام و شماره موبایل و فیسبوک طلب بکنیم عین اون میموند که از امام اصلا رایش نبوده از قرن اول کسی در پایان قرآن اسم خودش رو بنوش در قرن دوم و اینا چیزای بعدی است که به قول غربی آنک رو داره نه همزمانی تاریخی داره به او قبلیان نسبت داده شده. دو مورد آخر اعتلاع در مورد پاگان یکی مهمترین ویژگییهایی که نسخه شناسسه کمتر بش باشن. پاره های دیگه این نسخه کجاست؟ هیچ وقت نسخه ها کامل یعنی معمولا خیلی نسخ کامل نیستند به خصو نسخ قدیمی، ولی برای یه محقق وقتی یه نسخه رو بررسی میکنه خیلی مهمه که بدانم تکید یه این نسخه الان کجاست وقتی یه نسخه 200 صفحه بوده و ما الان آرام برگش رو بیشتر نداریم در اختیار نداریم و با همون پنجا برگ میخوایم داوری بکنیم این خیلی مهمه که 400 پنجا برگ دیگرش یا 100 برگ دیگرش یا دستی که یه برگ دیگه از اون نسخه رو یه جای دیگه پیدا بکنیم اطلاع در مورد پارههای دیگه یا حتی نمونهای مشابهی که از این خط وجود داره چطور وقتی یه نسخه از یه تفسیر یا یه کتاب حدیثی رو میبینیم و میگیم این کاتب اینن یه نسخه دیگر رو در فلان جا کتابت کرده این اطلاع رو میدیم. میز قرآنی باید تا اندازهای به ما کمک بکنه که پاره‌های دیگه اون نسخه قرآنی رو هم بتونیم بیابیم. و اترد در مورد میزان یا شکل تکمیل نسخه یا اضافه‌هایی که به نسخه شده. مثلا قرائت نسخه عوض شده. در بسیاری از نسخه‌ها از که قرائت مطابق آسم شده. تغییر کرده یا به نسخه چیزهای اضافه شده های خاصی اضافه شده در نسخه های کوفی قدیم هست که یک نسخه با علامت‌های نقطه‌های قرمز رنگ گذاری شده و بعداً با سه رنگ دیگه های دیگه در اون نسخه مشخص شده با رنگ سبز با رنگ آبی و با رنگ زرد سه قرائت متفاوت اطلاعات در مورد این اختلاف قرائات یا تغییر قرائت نسخه باید داده بشه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 و ولی در واقع این دو نسخه یکی هستن. این نسخه موزه ملی ایرانه در 20 سطر و این نسخه سمت راست کتابخانه آیت الله گلپایگانی است، از همون و سمت چپ برگ‌های از اون نسخه که در حراج لندن فروش رفته. دو تصویر بعدی هم باز متعلق از به همون نسخه که در حراج لندن فروش رفته. البته من متصفانه با عجله اومدم تا این دو دوتا... تا. با... تاریخاشو ندارم. اه... حدود سی ساله که سه تا حراج مهم ساتبیز، کریستیز و بونهامز در لندن تمامی اشیاء مهم ارزشمند تاریخی از هر فرهنگ و هر نقطه جغرافیایی دهان رو مالکانی میارن و دونجا به حراج میذارن و نامیفوشن. در حدود 50 سال اخیرش این سه تا حراج یکی از کارایی که اضافه کردن نسخه های قرآنی و اشیاء فرهنگ اسلامی مثل کوزه و اشیاء اینچنینی. ما اگر بتوانیم اطلاعاتی در مورد اون چه که در این حراج ها فروش رفته و تصاویر و اطلاعات اون نسخه رو داشته باشی یعنی می ما داشته باشه کمان که در این مورد این نسخه من این کار کردم وقتی یه نسخهی در کتابخانه خانه آیتولای معرفی میشه به او بگیم یه تکش در موزه ملیز و چهار تکش در چهار تاریخ مختلف در حراج ها فروش رفته اطلاعات تکمیلی اون نسخه رو به نوشتن بدید. من فقط چهار تا نسخه رو به سرعت می‌خوام پایان صحبتم هم همینه. می‌خوام چند تا نسخه رو از این حیث نشون بدن که تکیه های اش کجاست. مثلا این نسخه در مرعشی نوشته شده جزء هشتم و هفدهم میباشد. خط کوفی، کاتب ابن بواب، علی ابن هلال 392 قمری. در روی برگ اول تملک ابی سعید محمد ابن الحسین ابن علی دیده می‌شود. در این نسخه کوفی دانشگاه تهران هم دقیقا همون جزء 22ش وجود داره با این تفاوت که این خط ابن بواب یا امضای ابن بواب جعل نشده این از جعل مصون مونده ولی این جعل رو داره هر دو تاریخ ندارن بله این تا... وقتی که جل جعل کرده ابن بواب تاریخ هم زده ولی این تاریخ نداره ولی همین آدم که یک وزیر است این یه وزیر آل بویه است حدوداً 439 فوت کرده این فرد ابو سرد. و, و یه تکیه دیگه از همین نسخه در آستان قدس هست باز اون کسی که این رو روش تملکش رو نوشته الان میبینیم تصاویرشو و او حد زده در آستان قدس که این قرن ششم هجریه در حالی که این ستا اگر می‌دانستان که بخشای دیگه از نسخهشون در کتابخانه بغدادیشونه یا تکیه های دیگه از اون نسخه در دنیا فروش رفته، تعداد بررسیمیشون کامل‌تر می‌شد. این نسخه از کتابخانه مرعشی است در روی صفحه اول نوشته شده احتمالاً مالک یا آمار به کتابت یا به نظر من شاید حتی کاتب. اللهم کرد ابلك به راجی الا رحمت الله ابي سعد محمد بن الحسين ابن, ابن علي و و لی اولاده و لی جمیع المؤمنات، مؤمنین و المؤمنات، من قال آمینه یا رب العالمین. صفحه اول نسخه مرعشی، صفحه آخر با یک افزوده کاملا جعلی کتب هاز الجامع، علی یبن هلال، هلال، یا به مدینت السلام، سندسانی و تسئین و سلافمه. خب، همین نسخه، تکه دیگه در کتابخانه دانشگاه تهران با همون، ملکیت وجود داره و تکه و تکه های این صفحه اوله اون نسخه دانشگاه تهران با همون خط به تعبیر دوست دانشمندمون آقای حسینی آقای موسی بروجردی با این کوفی بی سلیقه یه بار یکی یاد ایشون که ابن وباب چقدر بی سلیقه بود باشه که چنین کوفی ولی به جای اینکه از کوفیای پردر رفتار بوده ابن وباب دست کم اینو ننویشه ولی از این نو سبک اینم دو تا تکه از همین نسخه که در حراج های لندن این اولی و این دومی فروشافت. این علاماتی که اینجا می‌بینید این نوع تذیه تأشیر یعنی ده تا ده تا کردن عیناً در اون نسخه‌های دیگه هم وجود داره. نمونه بعدی قرآنیه بسیار معروف 3382 شماره 3382 که اینو مقام رهبری مقام معظم رهبری آیت الله خامنه‌ای این رو اهدا کردن به خود خوردن 20 سال پیش. این هشت برگ 900 سطر وجود داره در این سایز حاوی چند تا سوره است دو تا برگ از سوره لقمان دو تا بعد سوره سبع احزاب و سجد پاره پاره به تکیه های مختلف است قرآن بی اندازه در دنیا معروف شده به خصوص در آسان قدس ولی نه فهرست نویس های آسان قدس نه کارمندان اونجا و نه کارشناسان اونجا هیچکدوم خبر ندارن که تکیه های دیگه اون دست کم در سه تا و من تکیه های دیگه رو در جای دیگه, دیگه در کاخ جای دیگه پیدا کردم یه در کتابخانه ملی اسرائیل هست فعلا در فلسطین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 نسخه کاخ قلستان کنار آسان قصر رزوی قرار دادم. این بهترین تصویر بودی که من داشتم فقا این فقا لو ربنا باید بعد نوشه شد. باید بین از فرنا یا از فارنا ناش اینجا اومده. و ظلمو انفسهم و ظلمو انفسهم فجعلناهم احادیث الان این تککیه یک برگه است در کاخکولستان وست میشه به اون تکه که در نوع خد، نوع تزهیب، نوع علامت گذاری یا همه اینن مثل همه است. در این یکی یکی روشندتر، یک کمی روشندتر است، شماره چلو، ده چلوشی کاخکولستان کنار این گذاشتم. و این اخت نامن نبیین نمیتاق هم و من که و من نوحن و ابراهیم و موسا و ایسابن مریم تا اینجاش و منش در این نسخه اومده، از نوح به بعدش در اینجا اومده. و این ارتباط رو نسخه معروف دیگری که در دنیا خیلی و در نسخه شناسان ایران هم خیلی معروفه است نسخه مکتبه امیر کتابخانه کتاب خانه علام در نجف که منصوب است به امام علی و این نسخه خیلی شهره است یه تکیه از این نسخه تقریبا هفت برگشت در مدحف العراقی در موزه عراق در بغداد الان قرار داره که مشتمل بر این سورا هستن ولی تکه های دیگه دو تکاش در آستان قدس بر شماره های 40 و 16 یک تکاش در بادلیان با این شماره و جاهای دیگه من چون خیلی وقت کم هست فقط اون تکه هایی که به هم مرتبط هستن آه اولا تصاویر رو ببینیم این دو تصویر بالا متعلق هست به شماره 16 آستان قدس این دوتا شماره 40 آستان قدس هستن این شماره اینجا شماره نسخه مكتبه امینی هست در نجف این بغلیش نسخه متحف اراقی هست در بغداد این در یکی از حراجای لندن فروش رفته این تکه فکر می در بادلیان هست و این بالایی الان خاطرم نیست فکر می کنم در کاخ گلستانه الان از روی حافظ نگم بعد برگردم به تفیقات ولی پیوستگی ها رو میخوایم ببینیم الان نسخه شماره چهل آستان قد متصل میشه به نسخه شماره 16 آستان قص. قالوا الطيرنا بك و بمن معك انتهای این صفحه به ابتدای این صفحه شده و فهرست نمیشه که راهخونه آثار القص دستگیر هم همین دو تا که خیلی هم به هم نزدیک بوده حالا نمی‌گیم علامه امینی در نجف رو بشناسه همین نسخه های خودش رو متوجه نشده که این از این به این از این متصل نمیشه و نوع خط کتابت تعداد صد آرایه ها همه مثل هم هستن یه امتحانی بکنه و دوباره از همون دو تا نسخه و که آخر سوره شعرات و تقلب کفت ساجد دین یا ونونش اینجا قرار گرفته و به هم متصل میشه چرا جدا میشه هم همیشه؟ ساجد دین خب من دوستان گفتن من این, این کتابت رو بهش میگیم کتابت پیوسته سکریپتیو کنتینیوا این سنتی است که از قبل از اسلام در نسخه های سوریانی وجود داشته و کلمات در سوریانی بدون فاصله هایی که ما الان متعارفت بین ما رعایت میکنیم نوشته میشدند فاصله بین حروف در کلمه و فاصله یک کلمه با کلمه بعدی یک اندازه است مثلا ولا تذر و ازرت را اخرا همه این کلمات با یک فاصله پشت هم نوشته میشن و اگر کسی نتونه کلماتش تشخیص بده نمیتونه کلمه آیا رو بخونه مثلا لاتز رو وازرتون رو ممکنه بخونه لاتز رو با اون بخونه این شبیه موجوده. به همین سیستم، تو همین سیستم اگر یه کلمه ای در پایان سطر تمام می‌شد سطر تمام می‌شد و جا وجود نداشته اون رو می شکستن و به انتهای سطر بعد منتقل می‌کردن آقای دروش آقای دروش معتقدن که این اتفاق در نسخه های حجازی یعنی قرن اول در دو تا صفحه نمی افتاده. یعنی مثل اینجا علاوه ببینید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 به و خط کوفی از این کوفیون حالت در وجود داشته از همین سبق تبعیت شده و ادامه پیدا کرده. صورت <تصفح> خوده نمی‌شود میگم جدا جدا احاطه شده. این سمت راست یک نسخه ای در موزه استان قز که خیلی او رو به شکل خاص آرافتند و یک قابی هم براش درست کردند یک خط کوفی ایرانی بسیار نقاشی زیبایی است گویی یک بارم بیشتر گوی این کاتب این سطر رو ننوشته کاتبی نبوده که از روش تقلید هم بشه حتی سمت راست همونه در واقع پشت برگست این از زمانی که آقای گلچین معانی نزدیک که 50 سال پیش اون کتابشون در مورد راهنمای گنجینه قرآن نوشتن این قرآن به دنیا معرفی شده و تو آستان قصد این نسخه فهرست شده اما هیچ چیزی در ایران متوجه نبوده که بخشایی از این نسخه الان در موزه تاریخ عجب یا معصده هنر شیکاگو سمت راست و چپ وجود داره. دو تا تکش در حراج کریستیز و ساتویز فروخته شده. و از همه مهمتر تقریبا نزدیک دیویز برگش در گالری فریه در آمریکا که گویا اگر اشتباه نکنم از موزه هنرهای ترک و اسلام در ترکیه به امانت گرفته شده. این تصویری که شما الان میبینین تداد برگه رو نشون میده. این یه نمونه. یه نمونه دیگه که خیلی جالب باشه برای آقای موسوی بروژرتی عزیز در جمع ما نسخه اتب... یک... یکی از قرآن‌های عتبه حسینی است من حدود دو سه هفته پیش متوجه شدم سمت چپ نسخه‌ای است که با ترجمه فارسی یک خط کوفی خاصی نوشته شده و سمت راست قطعه‌ای از همون نسخه که در حراج ساتیبیز لندن در 2015 فروخته شده و یه تیکه دیگه دوباره از همون در ساتیبیز 2016 فروخته شده و آخرین نسخه نسخه عتبه عباسی است که چند سال پیش این نسخه بازدید هم نگاشم توی مجله‌ی ژو فراجیه. همین. آها. پس من حد می‌زنم ممکنه. ممکنه از طریق حراج ساتیبیز یا کریستیز خریداری شده باشه. آها از قبل تو ایران خریداری کرده. برایش براش پیدا بوده، یعنی خیلی اطلاع خوبی بود. من بعد به این مجموعه این هایی که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 دلم بخواست که من اینو دو سه هفته پیدا کردم خیلی جدیده نسخه عباسی به خاطر یه نسخه است که منصوب به ابن وواب شده و مسحه و در واقع چاپ کننده این نسخه مقدم نویس بر این نسخه این نسخه رو که به خط سلس نوشته شده به این صورت با مقدمه بسیار طولانی برابر شباهدی که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 چهار سطح نوشته میشه. بسم الله رو دقت بکنین. اینجا بسم الله و این بسم الله. تو چهار سطح نوشته میشه ولی صفحات بعد از اون افتتاهیه تو پنج سطح هستن. مثل این صفحه که تو پنج سطح نوشته میشه. در همینجا تا داغه من نشون بدم که این آخر سوره منافقونه. فیقول رب لولا اخر تنی اخر تنه تنه إلى أجل دقه و وأكون من الصالحين. در قراءت مو حسب وأكون منه. این تنها و تنها و تنها قرائت ابو امر هست. در نسخه تکیهی که از همین نسخه که منسوخ شده به ابن وفاء. تکیهی دیگه از این نسخه در کتابخانه چستر بیتی این چهار خط دفتر کاره. بله وقتی افتتاحیه، افتتاحیه چهار خط صفحات بعد پنج خطه. ببینید ادامه چستر بیتی دوباره پنج خطه. دوتا دو تیکش در حراج 130 و نه و 89 فروخته شده. این صفحه اول اقتصادی است چون قدرت داشتن 400 صفحات میانی 500 هستند. این نسخه توپ قابیه که من از کتاب آقای, آقای, آقای نه این کسی که مصاحف قدیمی رو چاپ کرده مارتین لینکس. آقای مارتین لینکس گرفته این صفحه رو از نسخه توپ قابیه است و صفحه داخلیش هم که 500یه. اما جالب اینجاست که ما زمان کتابت این نسخه رو تقریبا دریافتیم. در ای در که در مجموعه خلیلی هست یک, ب... یک جلد یعنی صفحه ما قبل آخر وجود داره که نوشته شده که در خ... این عربت همین مهد در سمت چپ بازنویسی شده. این, اینو... این کار رو خود سایت مجموعه خلیلی انجام داده و این صفحه رو گذاشته رو سایت خودش. من از اصف... من سایت مجموعه خلیلی این رو گرفتم. آه. اینجا نو... اینجا تاریخ کتابت و نام اون عامر به کتابت ذکر شده و از همان منتهی که دقیقاً سالش سنه 760 در پایین آمده است این چیزی که در اسم این یکی از پادشاهان آل زنگی هست در شمال عراق در منطقه سنجار یک فرد بسیار مشخص و معروف دوره حکومتش معروف مشخصه از چه تاریخی در چه تاریخی کلابت کرده خب اگر ما این اطلاعات در مواد تکه های دیگه این نسخه داشتیم نسخه عتبه عباسیار رو به جای اینکه که طوبوغو کرنا بکنیم و جایزه کتاب سال حوزه هم بهش بدیم در جای خودش می و اگه نسخه بسیار با ارزش بسیار با ارزش این نسخه از حیث زیبایی و از حیث تاریخ قراعات نو خیلی مهمی در جای خودش می و تیکیه های دیگه اون رو به هم وحث می کنند البته این پاره های دیگه هم داره که من به خاطر فرصت کوتاه هم اون رو حث می و مارکنگیم فصلا تا تاریخ داره سوالتنی بسرین خوردگی داشته باشید در درخمه مارتین لینگز تو اون سر, تو رو شما میگین؟ بلده. نه من کامل متنشو خوندم متن انگلیسیشو در این شده اگر این تیکه مرتبط با اعتباره منظورتون باشه نه من تاریخ شد توی نسخه در کتابخانه خلیلی مجموعه خلیلی دیدم. خیلی عذرا من یه مزاری از تصاویرم رو هست کردم برای اینکه خیلی حوصله شما ممکنه سر بره و من خفه خی... نمیشم ولی اون مستمعی ممکنه که به هر شم... بیشتر از این جا نده از خواهی میکنم و خیلی ممنونم هم از دوستان خودم در مجموعه کاتبان و کتابخانه بنیاد محقق تبا و, و هم از اساتید خودم سروران پجویشگران عزیزی که بندرم مفتخل کردم و خوشحال میشم اگر به من یادوبری های انتقادی خودتون رو بفرمایین که کار من رو تفصیح بکنین متشکرم در رویوتی با همون تشخیص تاری من نشستم امروز این نظاری مطالعه کردم و اینقدر اختلافات داشتم چون که اصلا اونگارام قدر خدمات و صحبت شب سال‌ها قبل درباره تشخیص تاریخ نسخه‌های کوفی شما کار آقای دروشو چجوری تعیین می‌کنید یعنی اون جدولی که ایشون درست کرده اون حروفی که تفکیک کرده آیا من نسبتاً اونجوری که دیدم به نظر بهترین کار و روش اینو یعنی برخود کن. شما نظرتون چی هسته این رابطه اه اجازم خدمت شما که در مورد نسخه های کوفی قدیم که آقای دروش در کتاب سبک عباسی اولین بار با دیدن مجموعه نسخه های کتابخانه ملی فرانسه و مجموعه دکتر خلیلی تقسیم بندی انجام داده اند من این تقسیم بندی رو یه تقسیم بندی خیلی خوب میدونم به دلیم که ما در زمانی به این تقسیم بندی دست به کردیم که هیچ تقسیم بندی نداشتیم یعنی نسخه نویسان نسخه شناسان و فرس نویس های ما فقط نسخه های کوفی رو می دیدن می این کوفی یون قدیم کوفی یون جدید قرآن و نفیس در همین حد اطلاعات هیچ وقت جزئی و کاتگورایز یا طبق بندی شده نبود آقای دروش برای اولین بار با توجج به ظاهر کلمات کوفی و شکل نگارش کلمات کوفی در دسته های مختلف حروف کوفی نه کلمات بزارم. حروف کوفی مثلا حرف الف حرف نون حرف لام دو شاخه لا و مانند اون یه تقسیم بندی های انجام دادن که دسته های مختلف کوفی رو از هم جدا بکنن البته این دسته‌بندی ایشون لزوما معنیش این نبود که دسته ای مقدم است بر دسته بی و بی مقدم است بر دسته سی و ترتیبندی بندی زمانی نبود ممکن بود دسته ای و بی و سی هر سه در یه زمان واحد مثل قرن سوم هر سه کتابتشن ولی با سه سبک متفاوت من به نظرم از این جهت ما با یک پیشرفت مواجه بودیم در زمانی که این کار انجام شد اما این اشکال خ... یه اشکال یا دو اشکال خیلی بزرگ آقای دستبندی آقای دروش که باید رفت بشه این است که اولا این دستبندی متکی بر یه منطقه و یه مجموعه خیلی خاص بود در یک جای خاص که کتابخانه ملی فرانسه بود یعنی خود ایشون هنوز که هنوز اعتراف میکنه من آرزو بود که مثل میتونستم به مجموعه آسان قصد دسترسی میداشتم و نسخه های اینجا رو میتونستم ببینم یا نسخه هایی که در یمن کتابت شده مجموعه عظیمی که در یمن منده و از اونجا خارج نشده اگه اون نسخهای کوفی یا حجازی در اختیار ایشون بود خب چاید دسته بندی های ایشون خیلی کامل هم توسعه این روش است. توسعه این روش یک جوانبی رو میتونه بهش اضافه بکنه مثل این که مثلا ما امور غیر کتابتی مثل مسئله قرائات، مثل مسئله قطع مثلا آقای دروش هیچ وقت به قطع نسخه دخالتی نمیکنه تو قطع نسخه تو اندازه نسخه شکل بیازی یا عمودی بودن رو وارد سیستم خودش نمیکنه یا مثل حالت گردش قلمهایی که اه, کرسی نگارش رو بالا و پایین میبره کرسی نگارش شما کجا باشه نسبت کلمات تا سطح کرسی چقدر باشه اون چیزی که یه خوشنویس امروزه برایش مورد توجه هست تو کار آقای دروش اون زمان مورد توجه نبوده مقدمش تو مقدمهاش تفصیل خیلی از این صحبت ها میکنه اون دو سفت اولش خیلی از این از هم بحث کرسی و کلمات و غروف و چگونگی گرفتنه سطر در کرسی، کلمه در کرسی تمام بحثا نسبتاً میگم من میگم توسعه بدیم این کارو آیا به نتیجه بهتری نمی من از بیان هایی که با سیستم دروش کار کردن زیاد این رو شنیدم که سیستم دروش در زمان خودش خوب بوده ولی امروزه جوابگو نیست یعنی خیلی خیلی نمیتونه با نیازهایی که ما امروزه پیدا می کنیم یعنی تعداد زیاد نسخه‌ای که می بینیم جوابگو باشه لذا صددرصد منم موافقم که خیلی عناصری دیگه به سیستم دروش باید اضافه بشه که ولی همون هم وارد ایران نشده یعنی همون هم به سیستم فهرست نگاری و نسخه‌پژوی ما وارد متاسف کنیم. خیلی ممنون مسکر از صحبت‌های خیلی خوبتون و مطالب خیلی خوب مثر میشه از میکنم در مورد اون مصای فرمود از قرن سوم تا قرن ششم در مورد در مورد یک سری بله بله که گفتید از قبل از 300 نیست و بعد از ششصد بعد همین میشه بین در واقع میشه مشخص کرد که کاتبین ظاهرن یا واقفین یا آمرین به صلا سننی بودن یا شیعه میشه اینو فهمید اولا خب مثلا یکی از کاری که اینجا میشه کرد حالا البته دیگه معنی مثلا سهم سهم سنجی بکنیم مثلا که چه میزان شیعه ها این کار رو انجام بدن و چه میزان سنی ها کرده حالا شاید خیلی مهم نباشه ولی مهمتر این که آیا میشه در واقعی این مصقه که معلوم بشه یه سریشو سونگه نوشه سریشویه ها نوشتن آیا مجدی هایی دارن که اختصاصی مثلا فرض کن مذهبی بشه بش یعنی نسبت مذهبی دار واسه شیعه ها اینجوریه فرض کنید که مثلا فرض کن در کراحتشون یا در نوشتنشون یا در کلماتشون مثلا آیا میشه همچی چیزی رو در واقع به دست آورد یا نه و بعد یه نکته دیگه که شما فرمودین فرمودید که در اون نسخه هایی که به ائم نسبت دادن فقط گویا در یک مورد اون سئقولونن سئقولون الله هست در یک مورد فقط اون یک الله در یک مورد فقط تغییر الله حالا میخوام ببینم که اون اون نسخه هایی که باز به شیعه یعنی ها نوشتن نوشتن اونم همین این نکته میشه اونجا تفکیک کرد یا نه بله بله بفرمایید بله، بله، بله، بله، بله، بله، ارز کنم که در مورد نسخه هایی که من به شکل آماری ارز کردم از آستان قوز و جزوه جزوه نوشته شده و گفتم کاتبان اینا شیع و سنی هستند از درونش تا که من میدونم توان من بوده شاهدی بر این که در درون اون مت ویژگی شیعی وجود داشته باشه یا سنی نمیشه حتی مثلا در آیاتی مثل ارجلکم یا ارجلکم هر دو شکلش رو هم از اهل سنت هم از شیعیان می‌بینیم یعنی این دو تا قرائت مختلف ممکنه یک قاری یک کاتب شیعه ارجلکم نوشته باشه یا ارجلکم و به همین شکل یک کاتب سنی تنها تفاوتی که تا الان من دیدم شکل وقف نامه است یعنی تو وقف نامه سلام و درود و سلامات رو به شکل خیلی شیعی به امام داده باشن یا کاملا سنی مثلا رضی الله عنه گفته باشن نسبت به در زمانی کتاب در زمانی کتابات وقف نامه یا اینکه اسامی افراد اسامی افراد که میتونه سنی بودن اونها نشون بده یا بعضی از این افراد رو کاملا ما تو تاریخ میشناسیم اسم اونها وقتی دنبال میکنیم میبینیم این یه عالم خیلی معروفه یه محدث خاص سنی در نیشابور یا یه عالم شیعی از تبرستان از رو این میتونیم بفهمید ولی در درونشون خیلی تفاوت زیادی تفاوت ایدئولوژی همه قرآن می‌نویسن قرائت خاص رو نمیتونیم تا الان من نتونستم تشخیص که مثلا سنی‌ها قرائت ابو امر بیشتر غلبه داره توشون شیعیان قرائت مثلا کسایی تقریبا تو تمام اینها قرائت تلفیقی هست. اما راجبه اون نکته دوم که گفتیم من یه بار دیگه اون ادعای خودم رو میگم قرآن هایی که به آیین نسبت داده شده، چون عموما از قرن دوم به بعد هستن، تبار بصری دارن. و تو تبار بصری اختلاف قراءت تو سی قرون الله و سی قرون الله تفاوت قراءت خیلی پیداست چون بصری که قراء مصر مسرو مسرو بصری، امصار تو امصار که در نظر میگیریم شهر بصره از قدیم کتابتش معروف بوده از است. قرن اول که در اینجا الله آمد است ابو امر هم که قاری بصره است از قرن دوم به بعد اینجا رو الله خونده مصحفی که به ائمه نسبت داده شده من برای رد انتصاب اونها به ائمه اعدام رو اینجوری بیان میکنم که این مصحفا همشون الله دارن و ائمه نمیتونن مطابق با مصحف بصره این کتابت رو کرده باشن علل رسول بر اعتباری بحثی انتخاب کرده باشم اما این کلمه الله تو قرون بعدی هم خیلی خودشونشون نشون میدهگرین تو مصحف های قرن پنجم، چهارم، سهبم، حتی ششم مصاحف خیلی زیاد میدهد که مصاحف امثار نداریم ما قرائات داریم دیگه قرائت ابو امر الله در اینجا خیلی مصحف نمونه داریم که توشون الله مدهد من یک بار برای این یک آماری گرفتم هرچی نسخه تو دنیا میدیدم این قسمت رو صرف می‌کردم. ری که گرفتم تقریبا شاید 20 تا نسخه پیدا کردم که در اینجا کلمه لله نوشه شده و این 20 تا همشون هجازی هستن یعنی همشون قرن اول هستن. یکی دو تا کوفی داریم که اینا به نظرم کوفی های هستن اینا هم لله دارن بعد از اون هر کوفی که پیدا کردم که از قرن سوم چهارم تاشیشم هست و حتی نسخه های و خط محقق نصف مال قرن ششم هفتم هست همه اینا الله می نوشن. یعنی قرارعات ابو ابر یا شهر بسره خیلی تو این نسخه ها حویده و ظاهره من کلمه عیمه رو به این دلیل گفتم که رد بکنم انتصاب, انتصاب نسخه ها به عیمه رد کردنش دلائل دیگه هم داره مثل اقلاط املایی فراوان که تو این نسخه است و دقیقا ما شیعیان نمیتونیم بپذیریم که امام صحف بکنه و غلط بنویسه کالریدی دیگه داره ولی یکیش این بود بله وقتی اینا که انتساب دادن یعنی منتسبین در واقع به این هم طبیعتا شیعه و سنی هر دو هستند. اینا شیعه و سنی بله هر دو هستند خیلی از این مسائل در ترکیه توسط اهل سنت کتاب نسبت داده شده که کاملا سنی بودند نه نه نه نه من در توپکاپی امام صادق امام حسین و امام حسن داریم بله من نسخه های خیلی زیر در توپکاپی دیدم که اینجوری است فکر می من اینی از نزدیک نیست اون چندایی که من دیدم که قابل اجازه اگر کسی از نزدیک مجموعه نسخه اونجا رو ببینه خیلی بیشتر از مثلا 30 40 تا پیدا بشه تا الان ده تا نسخه توی فقط تو قاپی دیدم که منسوب شده یعنی هم داریم یعنی قرآن داریم که خودش خودش بوده میشه ما میشه اینجوری تا اینجا حد مثلا نتیجه بگیریم که یکی از محدود موارد که شیعه و سنی درش ظاهرا اختلافی ندارن تا پدیده در واقع کتابت قرآن و قرائت قرآن جایی برای ظهور دعوهای فرقوی ظاهرا نیست میشه همچین بله میشه اینطوری فقط در یه مواردی نه مثلا در مصحف های سنی ما بعد از ول از زالین گاهی امین میبینیم می نویسن امین کلمه امین رو تو خود مصحف می نویسن در بعضی از مصحف های شیعی میبینیم که بعد از اینکه قرآن تمام میشه با همون دستخط با همون نوع کتابتی که قرآن رو می نویسن در ادامه آخرین آیه دعای نسبت به خودشون کاتب و مالک و اینها رو می نویسند این آیه آخر معمولاً سوره ناس نیست چون جز جز می نویسن مثلا ممکنه آخر سوره اسراء باشه سوره اسراء که تمام میشه با همون خط این کارو میکنه ولی اهل سنت معمولاً این کارو نمی کنند تفاوتای می بینیم یکی هم مسئله بسم الله هست که تو تأثیرگذاری فرقه ایش تو نسخه های قرن دوم تا چهارم خیلی پیداست که دیگه از اون به بعد هیچ وقت بسم الله یه آیه مستقل حساب نشده حتی نسخه های منسوب به ائمه خیلی جالبه نسخه های منسوب به ائمه چون عموما در اختیار اهل سنت بوده اینا رو اومدن تأشیر کردن یعنی 10 تا 10 تا علامت گذاشتن کسی که تأشیر و تخمیس انجام داده تقریبا همه اینا سنی بودن چون که هیچ وقت بسم الله رو حساب نکرده بدون در نظر گرفتن بسم الله ده تا آیه اول انتخاب کرده و یه علامتی گذاشته که این آیه دهم مثلا رو مثلا دوم نسخه کامل داریم از قرآن یا نه این سوال اول هست سوال دوبارم میخواستم ببینم که قرآن هایی که منسوب به اهل بیت هست احیاناً میشه مثلا شواهدی بر صحت این انتصاب پیدا که لاقل تاریخ این انتصاب رو مثلا ما بگیم که به اون دوره میخوره چون بالاخره اگر یه قرآنی منصوب به اهل بیت بوده باشه ولو سینه به سینه تا چند قرن گفته میشده که این کتابتش مثلا به دست حضرت امیر صورت گفته خب تو قرن‌های بعدی مثلا نمشته شده باشه آیا همچین چیزی هست یا نه؟ نسبت به قرآن‌های کامل آها آیا نسبت به قرآن کامل داریم یادم ملا که یه قرآنی در قرن اول وجود امتصاب یه قرآنی به قرن اول چیه این خودش محل بحثه آیا ما مطمئنیم این قرآنی که الان در موردش صحبت میکنیم و کامل هست آیا این قرن اولیه یا نه این محل بحثه که ما مطمئن بشیم بعضی ها ممکنه آزمایش کربن 14 رو قبول داشته باشن بعضی قبول نداشته باشن بعضی شواهد خطنگاری یا پالیوگرافی رو قبول داشته باشن بعضی قبول نداشته باشن ولی تا اونجا که من قانع شدم ما،, ما به نظرم میتونیم قرآنی قبول بکنیم که داریم بخی از این نسخه های حجازی انقدر قرابت رسم در اونها وجود داره که بعید از اینا تو قرن دوم با این شکل نوشته شده باشند در قرن دوم که دیگه همه چیز تحت یک مدرسه و سیستم در آمده است و آرام آرام مدرسه های کتابت شکل گرفته و یه ناظرانی وجود داره تو قرن اول خب خیلی بی نوشته می شده و از اینها ما میتونیم تونیم بزنیم اما باز در میان این چیزایی که به خط حجازی تو قرن اول در اختیار داریم، قرآن صد درصد کامل نه، طبیعتاً قرآن ها در طول تاریخ به مشکلاتی میخوردن. صفحات اول آخرشون آب می‌خورد، نم می‌کشید، پاره می‌شد، در آن هزار مشکل اطراف و نسخه‌ها اتفاقی برشون می‌افتاد. ما قرآنایی داریم که بیشتر از مثلا 80 90 درصد متن رو امروزی داشته باشند یکی از اونها قرآن شماره 18 آستان قدسه که خوشبختانه بخش زیادی ازش باقی مونده یعنی بیشتر از 8 درصد قرآن های دیگه هم حدث من اینه که اوائل قرن دوم یا اواخر قرن اول دلایل خیلی پیچیده ای داره که با ما قرن سه قرآن کامل داریم، قرن چهار قرآن کامل الان اختیار داریم که از قرآن چه که دیگه کامل از اول از باي بسم الله تا آخر همه رو داره. کتابخانه کنگره شاید، کتابخانه کنگره تعداد قرآنای نفیسش انقدر زیاد نیست در مقایسه با جای دیگر. قرآنای خوبی داره، ولی انقدر قرآن تعداد زیادی، بعد نوشته زیاد داره اونجا. و در کتاب خانه تعداد زیادی برگ برگ قرآنی کوفی و اینها هست یعنی کمیترین قرآن مال قرن دوم میشه کرد ما الان قرآن داریم از قرن دوم از آخر قرن دوم اول قرن سوم به خط کوفی کامل در آسان غصت داریم در جاهای دیگه دنیا هم داریم ممکنه یه برگش وسطش مثلا آخر سوره ناز فقط افتاده باشه در این حد باید آه... آزمایش کربونش انجام ندازن شما ش آزمایش کربن که در مورد بعضی از شما انجام دادن چرا؟ شما میگین نسخه مشخصی که در مورد آسان قصه هست خب من باید یک ساعت و نیم در مورد نسخه آسان قصه صحبت کنم تا دلیلمو قانع کننده بگم دلیل خودم هست بله ولی این دلیل رو من تو سه تا کنفرانس خارج از کشور ارائه کردم هیچ کسی باهاش مخالفت نکرده آقای دروش همه حضور داشتن اونجا بودن با این دلیل کسی مخالفت نکرده یهسون کربن 14 کربن رادیواکتیوئه کربن عدد اتمیش دوازده کربن 14 یک کربونیه که دو تا پروتون بیشتر داره دو تا الکترون بیشتر داره و توی طبیعت به مرور نیمه عمر داره از بین و بر اساس این وجود این کربن تو اشیاء حیوانی و گیاهی شما میتونین تخمین بزنین اون اگر جنس گیاهی یا حیوانی داشته باشه طور عمرش چقدر بوده خود یه بازه زمانی به شما میده این آزمایشی کربن 14 که دستگاه مهمی میداره توی این آزمایشگاهی مثل آها با... اه آه. راستش من نتوانستم هیچ دلیل قانه ای بر تأیید پیدا بکنم چون بیشتر دلایل و خیلی خیلی واضح بر رد. مثلا یه قرآن وقتی روی رو کاغذ نوشته شده با یه خط بدن پخته و مت... متعلق به قرن پنجم و چهارم اصلا دیگه جایی برای این نمیذاره که من یه خورده حسن زن داشته باشم شاید این نوشته امام صادق علیه السلام باشه بسیاری از این نسخه ها از این حیث خیلی حویده داست که نسخه های اه... دوام این که شما میفرمایین شاید یک قرآنی رو امام نوشته باشه و اون نسخه به دست شاگردش رسیده باشه و اون شاگرد بهش بله بله بخوره بله شاید بله. نسخه های پوستی داریم که به قرن اول دوم میخورن ولی فقط این یه شایده یعنی ما چطوری میتونیم قبول بکنیم از اون طرف ما ردش زیاد دایی داریم وقتی برای کسی مثل ابن بواب یا یاقوت مستعصمی اینقدر نسخه جعلی تو دنیا درست میشه برای اینکه ارزش اون قرآن رو بالا ببرن یا همچنان که در کنار یه برگه قرآن دینیم قیمت اون قرآن رو می‌نویسن وقتی این اتفاق میفته چطور برای یه امام یا برای خلیفه سوم این کارو نکنن که عرضش و قیمت و بهاي اون رو برای هدیه دادن به یه سلطان یا برای فروختن بالا ببره این دایی از خیلی خیلی قدیم وجود داشته و بنابراین نمیشه اعتماد کرد به این نوشته ها چون وقتنامه‌هاشون غالبا و حکام و اینا هستن من در مورد تقریباً 200 تا نسخه همینطوره 200 تا نسخه منسوب به ائمه تحقیق کردم یعنی من تقریباً 200 تا نسخه که یا كتبه علی بن ابی طالب داره یا یه کسی بعداً اومده گفته این نسخه متعلق است به فلان امام با خط نسخ نوشته حالا یا نسخه کامله یا چند برگزش باقی مونده؟ بعد از دیویستا تا نسخه حالا حالالم بیشتر از این هم وجود که من دسترسی نداشتم هیچ کدوم نتونستم دلیل قان کننده برای یه چنین چیزی. شما میتونید بپذیرین حداقل امام اشتباه کاتب انجام داده باشه و صبر کرده باشه به ما یه شییه نمیتونید بپذیرین که امام مثلا نوشته باشه این نه یقااترو نه فی فی سبیلله دو بار فی بنویسه. الان خط قرض کوفی می‌دین؟ به مهمانان می‌دین؟ لطفاً مصرف یکی در این راهنما شما می‌دین که نصاست به شما. شماها نه عفوا. بله. اصل که ما نسخه‌های به علیمون هم آماده فکر می‌کنم بین 50 تا 60 تا هست. <تصفيق> بله آقای خرسان یک دو بار متن رسیدیم این موضوع رو خیلی نقد می‌کنم میگن گویی اینا یه جوری توصیف میکنن که امام صبح شب کاری نداشته فقط قرآن مینوشته یک از مخالفین این تئوری حضرت آقای خرسان حفظه الله هستن خدا ایشون کنه ان شاء این سوال خودم این که شما ارتباط بین ختم و ها... ما میدونیم که طول تاریخ خط کوفی با در کنار خط نسخ با هم دیگه وجود داشتن. بله. تقریباً قرن نه، در قرن اول خط نسخ وجود داشته که مهم اشو بود نام خط مستجیل چون چه ابن ندیم به این اشاره میکنه دیگه. و ما 40 خورده اینو خط داشیم بنابر حرف ابن ندیم که تشخیص این الان خیلی سفته چون چه الان ما می‌بینیم بعضی از این نسخ‌ها توی ورقای پاپیروس وجود داره من الان بحثم چیزی دیگه یه چرا با وجود خط مستدیر به هر نوعش که بخواییم بگیم قرآن رو با خط کوفی انتخاب شد که کتابت بشه در حجاز و مشهور بشه به خط حجازی یک و حالای به خودم تصاباتی بود نوشتم و دارم برای میکنم نظر شما چیه هستش ثانی هم برای اینکه که خود اصل خط کوفی یا اون حجازی مسترش به نظر شما چی هستش آیا میتونیم بگیم این از فترنجیری اگر اشتباه نکنن انجیری در از آره که آره. آره. در سوریانی که در بالای عراق در موصل اونها وجود داشته که کتاب های مقدسشون اون در اون مناطق به این خط مینویشن و آیا فرضیه این احتمال وجود داره که حالا نمیدونم من خودم خوندم من نوشتم حالا خودم خوندم یکی دیگه نوشته نمیدونم من خودم اینه نوشتم از زبان خودم که احتمال داره واقعا پیغمبر میخواسته به خاطر اینکه خودشو در انتداد وحی, وحی قرار بده بگه من همون مبنا هستم همون اسلام این دین الله اندالله الاسلام همون ختم در همون خط قرار دارم لذا خطی رو انتخاب کرد که هجازی یا اون کوفیه کوفیه هجازی انتخاب کرد که از اون خط منطقه موصل که کتابهای مقدس او با اون خب کتابات میشده گرفته گرفته شده یا اونها که می‌خواستن قران رو درست کنن و نظر ملحدان این هم دوش بله. نه شما از قرن ملحدان میگن نه این تقریر هست بالاخره چون شما از اینجا ب... از این جلسه بریم بیرون یه تقریر دیگه است دیگه اونا که به منشاء وحیانیش اعتقاد ندارن از نظر تاریخی بررسی میکنن مثلا ممکنه همین توجیه شما رو اونجا هم ساری باشه خب بله اون از تاریخ ما و از نگاه همون چون از بابا حجیت داریم به نگاه میکنیم مشکل نیست چون از بابا حجیت داریم نگاه میکنیم بله از بزر مله دان آقا برای اون سؤال اولتون در مورد اینکه چرا با خط کوفی انقدر نوشه و خط نسخ نسخی که حالا در قرن اول به معنای مستطیر به کار میرفته استفاده نمی شده این اثاره تا قرن سوم، چهارم، پنجم هم وجود داره من یه تصور زیبایی شناختی بگیم یا امروزی ها بهش میگن هنر قدسی واقعش اینه که متن قرآن رو در زمانی که کتاب‌های علمی هم می نوشتن، مثلا کتاب حدیث، کتاب تفسیر، کتاب فقه، روایات رو مثلا کسی می نوشت، با همین خط معمولی تو قرن دوم دست‌نویس‌هاشون رو مینوشتن. یه خط خاصی اگر... داره ابن مدین اسم داره که حدیث و شعر با اون خط کتابت می‌شده. ما اگر... نمی‌دونیم بر... چی الان. ولی اگر به قرآن می‌رسیدند، میخواستن قرآن رو کتابت بکنن، به خاطر اینکه برای قرآن یک قداست خاصی م... چیز بودن، اون رو متفاوت از خط رسمی خودشون مینوشتن. به همین دلیل است که شما قرآن‌های کوفی پیدا می‌کنید که به خط کوفی نوشته شده، ولی در پایانش کاتب با خط معمولی مثل عثمان وررق عثمان وراق، عثمان ابن حسین وررق در 462 قرآن‌هاش رو کتابت کرده، عثمان وررق با خط خیلی زیبای نفس در پایانش کتابت می‌کنه، ولی متن قرآن رو به خاطر اینکه یک قداستی براش معتقد از یک متن معمولی فراتر میدونه با همون خط نسخ معمولی که حتی در قبل از اسلام هم شکل سادهش وجود داشته با اون نمی نویسن. الان ما نمونه هایی از خط ساده با این غیرکوفی که این افتادگی ها و زاویه های خط کوفی رو نداره از قبل از اسلام رو سنگ نوشته ها داریم و در قرن اول تاریخ دار رو سنگ نوشته هایی که توی حجاز بله تاریخ سال 80 داره سال 22 هجری داریم سال 24 هجری داریم که اینا اصلا با خط کوفی امروزی مشابه نیستن در همه جا در, در بین النهرین داریم, داریم تو خود عربستان تو خود عربستان اخیرا خیلی کش سنگ نوشته سنگ قبر به خط ادموار اجنده نه ها خط آدموار، بله بله درست من فکر میکنم یه, یه بخش مهم ایش این است که قبول است که نویسندگان این متون چه عامدانه چه تحت اشاره و دستور پیامبر از یه سیستم رایج در جامعه تبعیت کردن دلیلش اینه که شما وقتی یه پدیده فرهنگی خیلی جدیدی میخواد اتفاق بیفته یه رخداد جدید یه صنعت جدیدی میخواد توی کشور ما بیاد این صنعتو ما از ابتدای از بای بسم الله تا تایت تا خودمون نمیسازیم الگوهای مشابه داریم کسانی که اولین بار میخواستن قرآن بنویسن الگوی انجیلی رو انتخاب کردن در الگوی انجیلی مصحف یا کدکس هایی که توی بین اون نهرین تو شامات وجود داره اولا, قرآن، اولا انجیل دونه دونه آیاتش مشخص میشه سانیان با خط سوریانی در قطع عمودی نوشته میشه به همین دلیل است که اولین قرآن ها به هیچ وجه قطعشون افقی نیست چون مصحفی که جلوشون بوده مصحف عمودی بوده ببینید مثل این نمونه این یه کارت بانکیه ما وقتی کارت بانکی تو بانکداری خودمون خواستیم بسازیم در این قصد ساختیم و این کارت رو به این شکل داخل دستگاه قرار میدیم هیچ وقت کارتی نساختیم که به این شکل داخل دستگاه بره چون ما در محیط زندگی میکنیم در فضای زندگی میکنیم که از قبل این الگو تو دنیا وجود داشته های دیگه مثل راهنمایی رانندگی مثل دانشگاه مثل بیمه و از اینجور چیزها رو تو فضایی ساختیم که نمونه ها و الگوهای ما قبل خودمون داشتیم قرآن به کدکس یه متن آسمانی، یه کودکس، یه مصحف الگوی قبلیش تورات و انجیل بوده و اونا این الگوهاشون از همین قد تو قرن دوم که آرام آرام حکومت استقراری پیدا میکنه برای خودش سازمان اداری پیدا میکنه اینا مسلمانیزه میشه یعنی تو فضای اسلامی که میاد شکل‌های جدیدی از برش فراوری پوست در قطع بیاضی آفریده میشه ساخته میشه از اون شکل اولیه خیلی خام هجازی در میاد این تصویری است که من خودم دارم یعنی منم پذیری از محیط رو الگو گرفتن از محیط رو من حتی معتقدم بسیار از این کاتبای اولیه مسلمان نبودن این تو چیزام بوده یعنی مسیحی بودن مسیحی بوده توی عراق شغلش بوده دانش کتابت داشته و به همین دلیل خطش خیلی شبیه خط عربی خیلی شبیه سوریانی در اومده این افتادگی که شما میبینین این افتادگی کاملا تو خط سریانی پیداست یعنی حروف سریانی الف هاشون کاملا به سمت راست. میشه گویندجورو تاثیرپذیری کاتبه مسیحی است که داره به مسلمان آرام آرام یاد میده و تو سطرهای بعدی اون که ای کاتب ایرانیه دیگه, دیگه. ما تورات رو حداقل به تو حد رولی و توماری داریم ولی انجیل و اینا رو به شکل افقی نداریم قرآن شاید اولین کتاب اصلا یک از نظریایی که میگن که قرآن به صورت افقی کتابت به خاطر این وقتی در کتابخونه قرارش میدادیم ممیز باشه دیده بشه این قرآن کاملا این نظریه اصلا مطقه الان در سمایه کتاب اروپایی ها مطقه یعنی به این شکل هر شکل قرارش بدین شما دیده میشه که این قرآن به صورت افاقی کتاب یعنی بس. کتاب به صورت افاقی قد در قصصه کاملا ممیزه مثل قرآن رو این زاره این نظریه کلمه من کتاب اروپایی ها خونده یه چیزی هست میباشید البته این الگوگیری <تصفح> صد در صد مثلا انجیل هایی که تو قرن پنجم ششم باقی مونده الان نسخه های ما در اونها انجیل های دو ستونه هم داریم. یعنی انجیلی داریم که دو ستون نوشته میشه. مثل کتاب های دا رو ولی این الگو اودا در نسخه نویسی قرآنی حتی قرآن های غیر متعارف و غیر عثمانی چون ما نمونای قرآن های های غیر عثمانی بران داریم دیگه توی دنیا باقی مونده تو بعضی کتابونه از بین نرفته. حتی در اون هم شکل نگارش تکسوتونیه یعنی در همه چیز صد درصد اربو نگرفتن یا همچنین تزهیب ها و نقاشی‌هایی که توی نسخه های انجیلی انجام میشه اینا توی نسخه های قرآنی وارد نشده توی نسخه های اولی تزهیب وجود نداره خیلی سرسوره های ساده ابتدایی خیلی ممنون استفاده کردم سوال بکنم در باره این قرائتی که فرمودین حفظ از اساس قرائت عاصم در یک برهه از زمان خیلی رایج شد. شما نسخه خطی مثلا کتب اربعه را نسخه خطیش رو عقدم نسخه را آیاتش رو بررسی کردیم که ببینید کاتبان بر اساس چه قرارتی نوشتن و استنادی که عین می‌کردن به یه آیه برای یک مطلبی باز بر چه اساس چه قرارتی بوده بلی بلی بلی بلی این مسئله خیلی این نکته مهمیه من یار هم تو جلسه بگم وقتش هم نبود خیلی تفصیل میخواد قرآن نویسی در کنارش تفسیر نویسی هم بوده اگر شما به کتاب‌های تفسیر امروزی مراجعه بکنید تفسیر تبری رو باز بکنید کسی که نسخه رو چاپ کرده متن آیات و قرآن رو برابر قرائت عاصم گذاشته این که ملاک نیست از کامپیوتر گرفته کپی پیست کرده اصلا گذاشته اونجا این که ملاک نیست ولی وقتی به نسخه ها مراجعه می‌کنید کاتب حتی ممکنه که کاتب متاخری باشه قرن هشتم بنابر قرائت زمان خودش یا اعراب گذاشته باشه یا نگذاشته باشه با اون چیزی که مفسر میگه حتا فرق بکنید ولی به درون تفسیری که مراجعه می کنید خود تفسیر رو می بینید قراعت قراعت آسم نیست من در مورد تفسیر وزیر مغربی که خودم تفسیرش کردم اینو با تو نسخه دیدم وزیر مغربی در 418 فوت کرده یعنی اول قرن پنجام ولی در درونش گاهی وسطش فقط میگه گه آسم هم اینجوری خونده یعنی قرائتش اصلا آسم نیست حتی در آیه لم یتسن نه تو سوره 259 بقره و انظر الاحماره که و اضامه که نه و که نه این آیه رو هیچ قاری لمیتسنه بدونه ها نخونده هیچ قاری از قرائ معروف در میان قرائ شواز و در قراءت منصوب برخی از صحابه گفتن لمیتسنه بدونه ها وزیر مغربی قر... متن تفسیری بر اساس لمیتصننه بدونه های اونو تفسیر میکنه و میگه و قرع لمیتصننه و یا قرع فلانی اون اگه بخونیم اینجوری میشه منوش لذا میخوام بگم مسئله قرائات در تفاسیر کنن تبری خیلی نمونه واضحه دیگه تبری متنش اصلا بر اساس قرائت یک قاری خاصه طبری فقط خودش کسی بوده که تا قبل از ابن مجاهد زندگی میکرد دیگه ابن مجاهد 2024 اون 310 فوت کرده خودش اختیار قرائات داشته یعنی کسی بوده که کتاب خود در درون متنم تفسیرش انجام میده برابرا سه تا قرائت انجام میده یا دو تا انجام میده و به نظر من هر کدومند تو تمام جمله هاش هر کدوم اختیار بکنی درسته لذا مفسران ما تا پنجم ششم با این موضوع مشکل نداشتن یعنی شما این مسئله رو توی فکر می توی مجموعه بیان من تست نکردم ولی میتونید تا اندازه‌ای زیادی ببینید اگر اشتباه نکنم یه بار یه بخشی رو چه علی خاطر هست باید یاد دو ببینم اما در مورد کتاب‌های حدیث مثلا فرق می‌کنه چون کتاب‌های حدیث متن قرآن رو به شکل کامل نمی‌نویسند و یه آیات خاصی رو ممکنه تو روایتشون نقد بکنن که اون آیه انقدر اختلاف قرائت ندیشه باشه مثلا ان الذين کفروا و ما و فلان این عبارات ممکنه انقدر اختلاف قرائت ندیشه اختلاف قراعت مربوط میشه به یه تقویت فقهی مثل لمستومون نسا یا لامستومون نسا ید هر نه ید نه اونجا کاملا پیداست که اگر در روایت امام چیزی اومده کاتب همونو نوشته ما میتونیم ببینیم لذا کتابای حدیث رو من به طور خاص بررسی نکردم ممکنه اگر یه آیه طولانی نقل شده باشه و نسخه خیلی قدیمی باشه قبل از قرن ششم باشه حداقل قبل از قرن ششم بتونیم این تفاوت اختلاف قرائات اونجا ببینیم تو کتاب تفسیر پیدا سف شیخ طوسی درت بیان چی قرائات رو را انتخاب کرده تفسیرش کاملا اتفاقی نیست آسم. یعنی اصلا ملا که شیخ طوسی قرائت یک فرد خاص مثل عاصم میسازه اونم تلفیقه یعنی اون تلفیقه بعد یه قراعت رو که مثلا مشهورتر میدونه میگه و بعد میگه قرائت های این اینهاست یا در ابتدا میگه انواع قرائات اینها هستن دونه, دونه اگه بخوایم تفاوت‌ها رو بگیم این میشه مثلا یورسرا ریاحن نشرن یا یورسرا ریاحه بشرن هیچ کدوم رو اختیار نمی کنه کدومه اما مسئله اینه که چاپی که ما باش تبیان رو درخورد میکنیم می‌کنیم که قرائت آسم رو بالاش نوشته و ما فکر می‌کنیم شیخ داره همون چاپ آسم رو یعنی قرائت آسم رو شرح می‌کنه ولی در نسخه نیست خیلی ممنون. استفاده کردم. من هستم مشتاق دیدار و زیارت حضرت آقای حکیم بودیم. خواهش میکنم این نسته ابن بوابی که معنی کتابخانه ملعشی شما فرمودید، من از یه سمت دیگه‌ای قطعی شده بود برام که خط ابن بواب نیست، چون به این دلیل که از دیدار کتاب سلطنتی سرتنچی که داشتم اونو کار کرده بودم اینا منحصره. این ارزا و یاد داشته که روی این داره و مهرایی که داره هیچ جای دیگه نیسته. در مرعشی در مرعشی. در مرعشی. اون نسخه ابن بوابی که نشونا... نسخ آره چیز کردید تقریبا برای من مطمئن بودش که حالا ب... سوای خط و سوای نسخه و چیز دیگه بله سوای چیز دیگه قطعا معلوم بودش که این خط ابن بواب نیست حالا شما اون دوتا نسخه رو که معرفی کردید جالب بوده. من یه چیز دیگه، حالا افتاد تا قبل از که ادامه بدیم رو اضافه بکنم، یه تیکه از این نسخه یه جزیش در دانشگاه تهرانه و فکر می‌کنم مرحوم دانش‌پژوه در آخر اون نسخه به قلم خودش نوشت که نسخه متأخر از جعل قرن دهم یا سیزدهم. این هم اونجا اضافه کرده ولی نسخه متأخر نیست چون این آدم این ابی سعید علی بن حسین اگه اشتباه نکنم، این آدم مشخص و معینی. دن. خب می‌دونید چرا چون از مجموعه نصیری خریده شده؟ و جفتش آره. و نسخه مرئی هم با واسطه از مجموعه نسیلی فروخته شده که تو کنوارش بله، کاموی نسیلی هستن من نه ودیا کاموی نسیلی نسخه‌ای عصیل خودش رو دیدی داشته بله آره ممکنه ممکنه ما کنایه کسی رو نشون می‌دم ممکنه کسی کسی حالا هر کس دیگه‌ای اون علیه رو اضافه کرده باشه ولی تو تمام نسخه به شکل یک دست اون الله هم مقرر له ابدیال رو اضافه کرده باشه خیلی بده چون یه تیکش تو آسانه خوده دو تا دیگه صفه یعنی دو تاش تو مرعشی یکشم تو دانشگاهی‌ها الان ما چهار جزءشو در اختیار داریم چند باشم تو خارج از کشور اینکه کلش جنب شده باشه با این خط دوره جدیدی خورده بعیده نه نه شاید اون امضا بله حالا یه نکته دامانده اون نسخه چستربیتی اون خیقانی رو اینها من میخواستم بیا تاریخ نبود شما اون نسخه رو مقدر رو به چیزم دروش اینو اول قرن چارم دونسته بدون اینکه اون تاریخ رو ببینه گفته اول قرن چارم من اکسایی من خرد چستربیتی همون چستربیتی من بحیار رو یه اون که اومد اون چیز فارسیش به نظر من احاقیه همها یه راه رسید به نظرم تو ببینیم چجوری میتونیم تشکیز بدیم یا نه این بودش که اسناد خریدی که توی کتاب خونه هست اونا رو بایدیم اگر نسخه از ایران مهنده باشه احتمال داره از همین مجموعه نسیری باشه به دلیل اینکه نسخه های که از ایران میرفته اونجا مشتبه اینو بیمی خریده برای, برای خود اون کتاب کنه، و این اگه یه چیزی اونم تذکیهای من دارم آها مثلا همو یاد داشتم می‌دونم به فارسی نوشتنش غلطات فاحشی که داره بله فاحشی که همو توی فارسی داره مثلا شعبان عید فلاح نوشته که بله بله این خیلی بالای من شک و شبهه داشت بله دا من... اون غلط خیلی خود اون البته غلط فاحشش اصلاً دلیل به نظر من دلیل سلامتشه بله یعنی یه ایرانی بله ندارم اون من همون رو ارز میکنم تو فارسیش عربی قلطی مینویسه این نشانه اصالتشه یعنی کسی تو خراسان فارسه فقط بلد اعه رو بذاره ولی وقتی میخواد عربی خودش بنویسه ابل قاسم و ابل می این مینویسه یعنی نصیری امینی یا قبل از او حتما این مقدار سواد داشتن که ابر قاسم نه شاید از این ناس... خب, ناس... خب ولی من یه دلایل دیگه‌ای دارم در مورد اون نسخه عرض می‌کنم شما بفرمایید بس... نه نه ببینید چ... من پنج تا من تا رو پیدا کردم یکیش در اسرائیل چهار تاش در چستر بیتی نداره یعنی ببینید باشه حالا عرض می‌کنم برگه های زیرین که 17 18 تا تکاشم تو کتابخونه های آمریکا پیدا کردم که برگ برگ دو برگ چهار برگ به اونجا رافته. بازم میتونه چیزی باشه. امینی باشه. اما با اسرائیل اینا جدی دینار خریدان دیگه. بله بله. ولی اروپایی بود. خب ما بی‌واظی نمی‌شه 500 سال. دقیق بگو این رو پوست اولاً این مساله. کل اینا روی پوست هستند و آربری اولین بار 1967 اینو دیده. تو فرستش آورده ولی متوجه قدمت یا اهمیت این تاریخ و اینهام نشده. راجع شده. نسخه صدر نشسته تو نکته مهمی که من اونجا گفتم این نسخه نسخه سلطنتی نبوده یعنی نسخه خیلی با ارزشی نبوده به خاطر اینکه خیلی بدخطه و ثانیا نسخه خیلی پر به همین دلیل در طول تاریخ هیچ وقت توی کتاب خانه مثل کتابخانه مثلا علمای معروف یا کتابخانه خانه یا معروف دوره صفوی قاجاریه یا به یه جای اهدا بشه هیچ فرح اینجوری نبوده نسخه چون این شکلی کم ارزش بوده کنار گذشه می شده و از بین رفته بخشایش که برای ما باقی موندن هیچ وقت به یه جای مهمی وقف نشده حتی من هنوز مطمئن نیستم آسان غز شاید نزید 6700 نسخه کوفی داره خیلی گشتم تا اران پیدا نکردم ممکنه پیدا بشه. این ویژگی رو برای و ثانین اون کسی که این رو تصحیح کرده یه آدم بسیار گمنامه اگر ما اسم یه کسی رو اونجا جلب بخونیم که حداقل یه اسم رسمی داشته باشه خیلی بهتر میتونیم به اون ارزش اون نسخه بی افضایی. تا اینکه یه آدمی که کاملاً گمنامه و نه سابقه ای در کتابت داره و نه خط زیبایی داره این کارو کرده باشه از این پنجتا تا فقط یه دونه امضا نداره یعنی اون صححه رو نداره این جامع درست بکرت رو نداره و اون تنها نسخه یک کلی غلط توش مونده جالبه من نسخه چستربی رو کاملش رو دیدم یعنی چستربیتی لطف کردن از دستشون رفت کامل 4 نسخه رو برای من فرستادن. یک نسخه هست که خیقانی تصحیح نکرده و چیز هم نکرده امضا هم نکرده پایانش ننگفتی من این جامعه رو درست بکردم. و اون نسخه که اسلام نکرده پر از غلط حتی آیاتی رو عبات تو نسخه که تو قرآن نیست خیلی جالبه. عباراتی چون عبارت قرآن خیلی به هم مشابه دیگه مثلا والذین هم محسنون رو نوشته لذین هم مؤمنون مثلا از اینجور اشتباهات این جور چیزا اشتباحات اینچنینی انجام داده و اینا نشانه است که واقعا این آدم نقش مصحح داشته و قلمش رو گرفته با یه خط متفاوتی از اول تا آخر اعراب‌گذاری خلیل ابن احمدی هم کرده اعراب‌گذاری شنگرف با نقطه های رنگی به سیستم ابوالاسود هم نکرده اینا شواهد و دلایلی بود که من به شک نکنه به اینکه این واقعا نسخه اصیله و جعلی حداقل اینقدر متأخر نمیتونه باشه. یه خود همین آره بازم خدا <تصفيق> <بخنه> <تصفيق> ما خدا من, <تصفيق> بله. این من این آره چون من عکس یه دونهشو داشتم هر چی بالا پایین میکردم به نظرم نمیاد این آه. مال قرن 290 قبل از 290 کتابت شده باشه ی این باید بله <محل> بله. آه بله. خیلی ها به من میگفتن این احتمالا خاقانی بوده تصحیفیز از خاقان مثلا باید داریم دنبال محله ولی این الان ما یه پارکی در مشهد داریم پارک خایقان همین پارک ارتش یکی از محلات مشهد بوده اینجا مثل مثلا محلات خیلی معروفی داره من وقتی صغرمی میکنم چیزهای حافظم کلم ترکیل میشه این خایقان هم یکی از محلات خیلی قدیم مشهد بوده اونجا مشهد به معنای سناباد قدیم منظورمه که سنی و شیعه اونجا زندگی میکردن در اون دوره و خایقان من اول فکر میکردم رزن حمیدان فرستمیس اسرائیل گفته میبارد رزن حمیدان باشه چون یه خیلکان اونجا داریم یکی کسی هم گفته مثلا طالقان یه خیگان داریم این تصحیف از اونجاست یعنی تعریب بفرمایید تعریب از اون منطقه است ولی ما واقعا تو قرن سوون تو طالقان و توی همدان مکتب قرآن نویسی نداریم هر از نشابور نیشابور و خراسانه یعنی خراسان کل ایران رو پوشش میده یه نفر رفته باشه تو رزن همدان اون تا بالا بله بله ری جز بشه دامغان جز بشه تو این مناطق بله؟ تا اون بر خود آن نه جز بشه همیدان و رزم خیلی این میگه که نمیشه پیش یعنی یکی سابقه اش بسیار زیادی در انتقال ترجمه های های فارسی مخصوصا خیلی موثر لهجه تورکفولی جناب حکیم این اعرابگذاری های فارسی هم خیلی جالبه نقطگذاری هایی که تو اینجا انجام داده کاتب همونجوری که متن قرآن رو به شکل فارسی نقطه‌گذاری کرده یعنی زیر را تو آیه قرآن نقطه گذاشته خب از این نمونه‌ها ها توی فارسی هست چیه ت... من چیه... من... اه... اه... توی این قرآنایی که ترجمه زیرنویس داره خیلی اتفاق آه. میفته که بله همون سیستم رو دقیقا اجرا کردن حتی توی ترجمه گاه وقتا تو این نیست ولی تو ترجمه هست گاه وقتا تو جفتش هست خدمتون رس کنم که تشکر میکنم بسه بند خیلی جذابود بودیم بس. بانکی داشتم رشتم قرآنی نیست و حدیثیه تا حدودی پاینامان رقم میشه به رجال نجاشه از اون باب اومده ببینم چیه هست یه کتابی هست در رابطه با میشون دادن هردم یادم هست یه کتابی هست به اسم جامعه شناسی واجی اررحمان در انهدام توتم اسم عرب اونجا میاد بحث میکنه که واجی اررحمان چه بلایی سر اینجا مکیا هورد تو سر معاجرهای خدایی که نوشتن بسم الله اررحمان رو رو رحمان. رحمان بله. بزن. اینجا میاد اون باجی الرحمن رو بررسی میکنه و شاید یه کودهایی به شما بتونیده نمیدنم که در رابطه با اینکه که در کتیبه های قدیمی که از جنوب عربیسان کرد شده کلمه رحمان رحمانات در... که ترفاز عبریش میشه کشف شده وجود ده بله. بله. بله اینجا اون بحث رو من کارگارد مثلا... موضوع کتابت یا رسم کلمات عربی قبل از اسلام و ارتباط این با کتابت های قرآن واقعاً من از قران الهی هجازی گفتم این موضوع من شاید یک درصد از اون چیزی واقعا وجود داره و باید باشه من نگفتم فقط یه فرضیه گفتم اینو شما میگین خیلی مهمه معروف بشه به سابقه نگارش کلمات مهم و ارتباطشون با اون ادعاهای قرآنی که زحمانو میبینیم و خداوند میگه ایا ما تلوع ولا هل اسوردسنا اونام پیرو بار حتی شواهد حت رو الان میگیم تو سنگ نوشته ها میبینیم حتی تو بحث احادیثی که داریم که صفات مؤمنین رو الجروب بسم الله الرحمن الرحیم که میگه این بحثایی که از اون ایشون قید میکنم توی کتابشون که از اون رحمانی بوده که عرب جاهلین می‌خواسته در مقابل پیغم در مقابل پیغم, در مقابل پیغم هست بره. بره. این هست این یه مارد کتاب هایی این کتاب یا مقاله؟ نه کتاب نه نشه الکترونیک شده سالت بینیش نوم مرتضا رزبی نویسن نشه بله خدماتونست کنم یه بحث دیگه حالا این سوالی داشتم یه نسخه نشون دادید که فارسی نوشته بود تاریخش رو فکر بله. yes. کردم بله. شما اینو در حرکت می‌ذیم دست درای میشه الان الان سخت‌تر شد واسه شما که این مربوط میشه به خراسان بله. اگر تاریخش رو به نوع فارسی نوشتن تاریخی که نوشته بود اگر مربوط بشه به اون آخرین قومی که تو ایران مسلمو شدم و حتی صف بودن تو این یعنی اون همون اعتقادات زرتشتی دوشون منده بود مربوط میشه به منطقه یزد نخراسم آها آه البته شما شما اون نسخه رو میگین که حسن, حسن ابن سلح بله بله بله بله اون رو یکی کسی نوشته به نام ابو حسن ابن صلح اسم کاتب اونه تو اون صفحه نبود ولی تو های دیگه چون قرآن تو حق پاره نوشته زرتشتی ها در اون زمان لزوما در یزد نبودن زرتشتی ها بخش زیادشون در هند بودن در افغانستان بودن زرتشتی از هم از بین نرفتهن و بخش زیادی از اینا در خراسان بودن تو قرن دوم سبوم چارم ما هنوز در, ز... در خوراستان خوراستان بزرگ آرز میکنم زرتشتی داریم و و در خورم حالا... ربتی ف... رب... کی... این تاریخ گذاری نوشتن این تاریخ بله ایشون پس گرفتن این تاریخ عالی بود ما تسلیمم نه نه من می‌خوام میگم شاید تأثیر اون تأخیر در گرویدن به اسلام بوده نه این تکوّل از کجا اومد که الان زرتشتیان در, در یزد ایشون و حتی آخرین و حتی آخرین قومی که مسلمان شدن بله بله. نه نه اینا داده‌های تاریخی اینو تایید تا... نمی‌کنه اصلا رابطه می زرتشتیت نداره مسلمان هایی که مسلمان شدن به مسجد میگفتن مسجد به فرشته میگفتن دیو به به به شیهان میگفتن دیو نمیگفتن شیطان چون ایرانی بودن و از فرهنگ ایرانی و زرتشتی خودشو از زبانشون دیو رو یاد گرفته بودن دیو میگفتن آروم یاد گرفتن که بگن شیطان یا بگن مثلا ملائکه سوال اخرام باشه این نسخهایی که زبان نویسی رو اینا رو نشون دادی تو همون دوره کتابای دیگه هم این موارد هست یا فقط توی قرآنی نه قرآن این هنر زیبایی با فریدین دلیل قرآن تو قوجشه. یعنی تو دو اون دوره دا... هیچ کتابای دیگه اینجوری جی... تقریبا نه تو اون دوره اگه منظورت مثلا قرن سوم چهارمی که نسخه های غیر قرآنی کم داریم ما ولی همون نسخه های غیر قرآنی هم که داریم کاتب خط خیلی معمولی می نویسه حتی خط خیلی زشت دقت بکنین بله جالبه در خود قرآن این خیلی نکته جالبه در خود قرآن گاهی وقتا متن قرآن به یک خط بسیار زیبای محقق نوشته میشه یا سورس ولی ترجمه به یک خط بسیار زشت امن ترجمه رو برای اینکه نشون بده این قرآن نیست، این در ش قرآن نیست به خط زشت می نویسه به صورت ووس تور می نویسه. حالا من کلمه سرس گفتم شما محقق بشنوین بله من خواستم تنایی رو بگم بله یعنی نمیشه امکان نداره از زیر دست آقای ممسیبور جدی چیزی در بره. بله ریحان ممکنه باشه. <تصفح> <تصفيق> مثلا این قرآن خراسان بنت عبالقاسم خط قرآن خراسان دختر نیشابور من اسم رو گذاشتم خراسان بنت عبالقاسم این یه ترکیبیه از سلس و محقق شما نمیتونیم به این بگین محقق هم بگین سلس بقاطر همینه که تکیه های مختلفش تو هر کتاب خونه رفته هر کسی یه اسم رو این خط گذاشته <تصفيق> اولین قدی محققه بله باره ما یه محقق نداریم بسته به اجرای هر کاتب این محقق فرق میکنه یه محقق خیلی درشت و با دورگیری های قشنگ میشه به سورس نزدیک میشه یه محقق خیلی تیز میشه کشیده میشه ریحان میشه مثلا دیگه ببخشید من تو حوزه تخصصی شما اگر منم گفتم دیگه کشیده میشه دراز میشه ریز باید باشه میگیم ریز بنویسن بله ستاره داوود اصلا یه دونه نیست اینقدر ستاره داوود هست که آدم فکر میکنه اینا از تو جیب شنم ستاره داوود در برای زیبایی تو قرآناشون اطرافش میگذاشتن اینقدر فراوانه تو قرن چهارم پنجم چهارم البته من شک دارم ندیدم چارم پنجم شیشون تا هفتون هفتون تقریبا ما ستاره داوود داریم و تو معماری معماری مساجد هنوز خب معماری که نمی‌شه از بین برد مهرابار که نمی‌شه از بین برد گنبد‌ها رو که نمیشه از اون هست هنوز واقع مونده. من که در رابطه با قرآن, <تصفيق> قرآن... <تصفيق> در رابطه با قرآن که ابن بوابی که چون منتشر شد و به قولن جایزم گرفت و اینها در زمان خودش خب وقتی اینا اینو انتخاب کرده بودن آقای خوشنویسی بود از بغداد آورده بودن و خیلی تاکید که چون که اون دیوان نمیدونم چردایی در ام فکر کنم در توخرافی توخرافی به خط ابن بله من قرآن اصلا دیوان رو به ها اونجا دیدم حالا چون این شبیه اینه که اصلا هیچ شباهتی از نظر شاکله کتابات حروف و, و کلمات و سطعندی و زیبا و اینا هیچ شباهتی وجود نداره من معتقدم اصلا کاتب این نسخه اصلا بدترین کاتب بوده و آن چیزی که زیبا کرده این نسخه رو اون تلا نویس بودن این قرآن ازش. نگه از در قبائد کتاباتی اصلا هیچ ارزش این قرآن نداره من اینا رو هیچ تکرار میکردم بابا این قرآن مال قرن هفته من نسخه رو بردم حتی اون موقع یادمه که عرض کردم نسخه رو بردم که تاریخدار بود که این نسخه ما این عین همین جز در اونجا در اروپا مثلا در فلان کتابخانه به با تاریخ قرن هف وجود من اینا دیگه موجب بودن به اون قرآنی که داشتن و فلال اینها قرآن چاپ شد به هر شکلی چاپ شد به اون مقدمه تفصیلی اون شکلی ولی شما من انقدر منذجر شده بودم به منم بدیه دادم ولی اصلا دیگه واظ نکردم مقدمه رو ببینم شما مقدمه این کار رو اگر دیدید میخوام ببینم که نذرتون در مورد مقدمه‌شه مقدمه این کار به خاطر اینکه اولین بار یه نسخه تو یک مؤسسه شیعی از قرآن به شکل فاکسی چاپ میشده ما تا حالا تقریبا نداشتیم و تو دنیا میخواسته بره آی سخفار خیلی علاقه به حوزه تاریخ کتابت و رسم الخط و, و قرائات هستن و خب الحمدلله واقعا تخصصی هم در این زمینه دارن تطبع خیلی جادم یه مقدمه خیلی مفصلی اولا در معرفی عتبه عباسیه که اون از قسمت بعدش, قسمت بعدش، تاریخی از کتابت قرعربی که خط عربی از کی شروع شده کتابت چجوری بوده، نمونه های قدیم چجوری بوده و اینا بیشتر از کتاب های منجد تکراریه و یه خلاصه از کتاب های مهم دیگر مثل مثلا منجد و دیگران رو آورده و بعد یک خلاصه از تاریخ مسئله قرائات و کتابت مصاحف در اسر عثمان و مصاحف بعدی و اینها رو آوردن و وارد معرفی خود ابن بواب و شواهدی که نشون میده این نسخه میتونه متعلق به ابن بواب باشه از جمله اون دیوانی که به خط ابن بواب در ترکیه وجود داره و یک کاتبی یا یک خوشنویسی در ترکیه شهادت داده که اون خط با این خط یکیه کی فثبته که این رو میتونی منصوب به ابن بواب بدیم البته خب گفتن انتسابم باعث حساب رأی کنیم که گفتن این منصوبه ولی همین انتصاب هم چیز غلط نسخه عتبه رو گفتن گفتن نه روش نوشتن المصحف المنصوب نه نه خود اینا ادعا کردن که نسخه منسوبه ولی خب همین هم چیز زیادیه چرا ما باید بگیم من من میام بگم این منسوب است به یاقوت مستعصمی چون یه کسی گفته شاید این شبیه اون باشه همینجوری علکی نمیتونن آدم یه منصوب رو را بندازه بعد ولی نکته جالب اینه که ایشون که وارد نسخه هم نسخه رو بر اساس مقابله با رسم امروزی در کنار هم هر صفحه از نسخه رو در مقابل رسم امروزی که ما بهش میگیم رسم عثمانی که متعارف است از نسخه مصحف امیری در مصر شروع شده تا مصحف مدینه رو که مجمع ملک فهد چاپ کرده و دیگه الان خیلی جاها تو دنیا رواج پیدا کرده با اون مقایسه کرده اما مصحف متوجه نشده که این نسخه تقریبا به تمامه به قرائت ابو امر نوشته شده من نمونه اون صفحه سوری منافقون رو به شما نشون دادم از ابتدا تا انتها هر جایی قراعتی بوده اون قراعت را ابو ام خونده دیگران هم خوندن اون پایین یه شرح مفصلی از این که این بنابر قراعت فلانی فلانی فلانی فلانی هست اووردن اونجا و ارجال دن به کلی از منابع دیگه در کتاب های کوهن یعنی متوجه نوع قراعت نشدن یعنی این اضافاتی که پایین اووردن خیلیشون بیفایده و بیسوده و یه, یه نکته خیلی مهمی که تو این نسخه هست و یکی از ویژگی های خیلی مهم می و آقای صفار خیلی بهش علاقه داره ستاره داووده چون تو این نسخه ستاره داوود اومده فکر کنم تو هم صفحات اول ایشون چند صفحه مفصل راجع به این که ستاره داوود در فرهنگ اسلامی وجود داشته و این اصلا مال فرهنگ ما بوده یهودی ها از ما دوزدیدن این رو و الان مال اونا شده، راجب به این صحبت کرده و رفته شواهد زیادی از معماری پیدا کرده از خود این نسخه، فکر کنم از درخی نسخه های دیگه قرآنی هم شواهدی عبرده که ستاره داوود یه امری بوده که تو معماری، تو هنر اسلامی و معماری اسلامی وجود داشته یه بخشش راجع به اینه، تو مقدمه خیلی تو چشم میزنه تو چند تا کنفرانس هم که آقای سفار گزارش دادن راجب به قرآن اگه یک ساعت صحبت می‌کنن نیم ساعتش راجع به ستاره داوود نیم ساعتش راجع به بقیه اجزای این نسخه من ارزیابی می‌مینم که انتشار این نسخه بی اندازه انتشار مهمیه یعنی ما به یک سند خیلی مهم از اول قرن هفتم دسترسی داریم کل مصحفن یجب ان برای محققین که بهش دسترسی پیدا بکنن تاریخی از, از, از همه همه تو, این ز... تو این جنبش تو این جنبش من دخالت نمیکنم من جایزه کتاب و سال حوضه بهش نمیدم. در این حد میتونم بگم شایسته اون حد نیست. امیدوارم که پاسخم قابل قبول بوده باشه. یعنی من... ولی به خاطر اینکه این نسخه چاپ شده هم که ما در اختیار داریم در زمانی که ما این نسخه رو در اختیار نداشتیم و نمی‌دونم من اینو خیلی واجبه ارزش میدونم حالا اشتباه هم به ابن بواب هم به شکل نادرست نسبت داده شده ببینید من اگه همین ابن من اونی که در عتبه یا سیاکی در مرعشیه بله ببینید سر الرحمن الرحیم رو برای الرحیم تشدید و فث گذشته برای الرحمن فقط حذف کاش نگذاشت. آیا این غلط محسوب میشه در نحو هم قدیم یا نه این هم بوده که حالا گاهی وقت‌ها سراعتی کرده یا نمی بله. گاهی وقت سراعت میگم این نمی کردن. این اصلا چیزا نه نه غلط غلط اصلا حساب نمیشه. تازه این نسخه نسخه خیلی محذب و دقیقیه. بسیار از نسخه ها هست که یه در میون اعراباتش میفته یعنی اون کسی که اعراب میذاره کامل اعراب نمیذاره. اشتباهه بله. بله. بله. این این تصور امروزی ماست که فکر میکنیم نسخه های قرآنی رو دونه دونه باید مثلا قرآن قران و میخوان بخونن و نباید اشتباه بکنن در حالی که بسیار از این نسخه ها نسخه های ملکی بوده فقط برای فخر فروشی یه پادشاهی در کتابخانهش که ما این نسخه رو داریم و یه کاتب درجه یک رو 50 سالگاهی وقت اوجیر میکردن برای 5 نسل اون سرسره قرآن می‌نوشته کار دیگه ای نمیکرد. اون کار کرده بسیار از این نزخه ها خواندن عمومی قرآن تو مساجد مثلا یا تو مهرم زون تو جلسات حرم حضرت معصومه و یا شبیه و اون نبوده که یا بریم تو مدرسه ها بخونن لذا شما می ما اشتباه میکنیم یا ممکنه اشتباه میکرد اون اشتباه نه چرا یک نواخنه لگه یا هایت همشتشتید و بنده باشه بله از اون جالبتر اینه که از اونجا بیتر شبیه همین تشدیدی که شما میگین گاهی وقتا کلمه مشدد وقتی که مکسور هست میخوام وقتی که کلمه مکسور هست بله تشدید رو بالا میذارن کسر رو زیر ختم میذارن گاهی وقتا تشدید رو زیر کسر رو زیر تشدید میذارن و به طور عادی کاری که ما امروزه برای کسر رو... ولی اون فتحه خونده میشه مثلا در یک کلمه مثل بشره، بش بشره شین تشدید داره ولی کسره رو زیر شین میذارن در سنت قدیمی همینقدر که این کسره در بالای خط گذاشته شده این صدای فتحه میده امیده و اگه بخواد صدای کسره بده و بشیر خونده بشه، باید زیر بیاد. این چیزی که در قدیم خیلی رایج بوده و اصلا اونا اشتباهش نمی‌کردن. ولی ما این رو با سیستم خودمون ممکنه ای بگیریم. یا پایین باشه. همین که بالای, بالای شین باشه معنی فتحه میداد. خوشبختانه مثلا ما و آقای ا بولای کلامی قدمایی هم دقیقاً قدماییه بله بله این سیستم قدمایی دقیقاً مثلا ما که تو صورت کردیم که یه راهو ما این همین روش کردیم و چت‌ها رو دیره حفظ آورده کامپیوتر بسیار بس. بس بس بس <تصفيق> یه دونه داوود یه در کتابخانه یه هرز هست تعویض. در کتابخانه فکر میکنم متروپولیتان در موزه متروپولیتان هر تصویرش هست الان من دارم توی کامپیوتر فکر میکنم که اونم در واقع همینطوره ولی اون شیئی نیست هرزش شما میفرمایید از قرن چهارم یا پنجم م آها میتونه دیگه باشه ولی چهارم خیلی قدیمی واقعا اگه باشه من تا حالا ستاره داوود تو ستار و قرن چهارم مطمئن به اطمینانی ندیدم خودم تا قرن هفته اوم و هشته اوم رایجه بله دلیلش اینه که قبه بقی نه قبه بقی حالا آقای خامیار اینجا هستن براوستانی اولین باری معمارای این رو ساخت و در اول قرن پنجم فکر میکنم قبه بقی ساخته شده معمارانی از ایران رفتن به اونجا همین براوستانی اطراف قوم یه وزیری بوده اینجا اجاده به پسر این مجد پسر این یه قرآن سیپاره وقت کرده تو آستان خود نه میگه برای والدم پدرش وقتی به قبر رسیده در مشهد دفن شده آیا مجد پس رو بردم کربلا پس برای هر حال میخوام میگم تو دوره یکی معماری اسلامی ستاره داوود رو میشناسه اگر از اون زمان مونده باشه یا یا بنا باسازی شده باسازی شده ببخشید با باسازی شده با معماری بعدی ولی چون قدیمی رو دیدن اگر عثمانی‌ها ساختن مثلا یا م... یا چیزا یا ممالیک احیانا اگه ساخته باشن من اینطور نگم تاریخی خوب نیست ممکن همون رو حالا آخیشم بفرمایید ببخشید من کمی توضیحات دقیق‌ترش رو بدم اوندن رو بنابراین که بنده بعضی خصوص سربازا رو تو یه توری اونم یه تهریک تقریبا بود خب اون گنبردی که ما تو یک شده به اصلا در دوله اول برامدن وحاوی ها گنبردن میبردی یک بار تخطیب شده یعنی... پس ما اکس اون قبل از هاویی ها رو نداریم نداریم تصویر اون بعدی وحاوی ها دوبار گرفتن اول دقیقا تو اول آن سعود هست که میان یکبار می میگیرم حدود هفت سال اینجا اونجا میمونن تا اینکه دوباره ابراهیم پاشا میاد مدینه رو برمیگردیمید از دوباره به تصرف اسمولی برمیگردیمید اونا یک بار این مدینه خراب و بعد بازتازی میشه اه... و بعد که دوباره در دودت سوم آنسه بود بقیه مدینه رو نکر به اجازت و اونباید که تحقیق کننن تا ارام این شکل بایده این شکل پس از باسطوسیه رفته بوده نیستش من گفتم شاید اون الگو و تو این اکسا ستاره داوود هست آها آها و خب اینجای تحقیق مستقل رو جدا کنیم من تو دوره های جدید خب تو مناطق جغرافیایی مختلف مثل شامات مثل ممارک در تظارف تو دوره های جدید هیچ تحقیقی نداشته ولی میدونم تو نسخه نویسی ها تا قرن هفت هم حتی هشتم هم ما ستر داودو داریم من ندیدم من ندیدم من نمیتونم هنوز چیزی بگم نمیتونم چیزی بگم چو게 진짜 یه, یه موقعی خیلی مد میشه این هم هست یه چیزای یه موقعی خیلی مد میشه و بعد دیگه آروم, آروم کم میشه اون نسخه آستان قدس هم این برای پدرش فرمودید گفت میگه که من این رو برای آستان قدس وقت می کنم که در قبه روبروی قبر پدرم ببخشید در قبه ای که قبر مزار پدرم هست اونجا خوانده بشه الوالد میگه این براوستانی برای پدر حالا شجر نامش هست اسم دقیقش من با اونو دقیقا به هر دوتا اشاره میکنه دیگه به هم برا... احسن. تو وقت نامه اومده پسر رئیس ایراکی این این بیشه برادرزاده. پسر خودشه پسر مجدور ملک پسر برادرزاداش برادرزاداش برادر. اینجا تو بخشنامه رئیس العراقی اومده ذکر شده اینو عمل استفاده صلاة و خوشی